منیچی، این. منیچ اینه دیگه اگر، اگر این نبود، چطور میشه؟ سنوزی ما های نبود، چطور میشه؟ یک دوم این که حالا بعض اینکه جواب اون سوالم دونستیم احتمالا اگر شهانامه نبود شد، ما هم امرود فارسی حرف نمیزدیم یا، یا هرچی، هرچی هست بعد، سوال دوم از همشه شد، که تو این کتاب، این گوندگی چیشی نوشته این شما در زرف در, در پنج جمله، ده جمله، شش جمله، هشت جمله میتونیم بگیم که تو این شهان بالاخره ملاخره چیانه چی نقشت شده؟ اقلا یه جوره، سه جوره، پنج جوره قسمت ها داره، نداره، ارتباط با هم داره، نداره، مطالب از چه نوع هست؟ این, این, هم،, این هم با است که کسی جواب نمیتونه این دو سوال این دور به این مقاله جواب داده شده من هم گذاشتم حالا که بعد دوستان تاثیر کنن تا حالا کتاب رسید یا نرسید دیگه یا گرفتن یا نگرفتن دیگه اونم مسائل سانوویس و به خودی دوستان م بود اینجا چون صحبت بردرسی شد صحت بدای 20 شده من یه که اینا هم می خوونم فردوسی رو بعد بگم که عرض کردم که، سچایش اگر اثر اعتقاد باشه به دل آدم مینشینه و آدم با شوق و ولع میخونش اما من میون تمام شاعرای ایران دو تا شاعر از همه شاعرای دیگه بیشتر من قرار کرده یکی رودکی یکی یکم البته بسیار شوهرهای دیگر هم مورد ستایش بودن توجهشون چوده. شده مثلا حافظ رو بسیار کسی هم ستایش, ستایش, ستایش کردن سلام آه. و دیگران دیگران اما بیش از همه فردوسی مورد ستایش قرار از قدیم الایام تا الان نظامی وقتی میمده فردوسی روش عزت میذاشته سعدی وقتی میمده فردوسی روش اعترام میذاشته دیگران دیگران همینطور تا روزگار ما که دیگر هستن بی حد و و بعد هم این این خوب دلیل داره یکی از دلائلش همین اهمیت این کتا آدمی که در حقیقت رودکی شعر فارسی رو روی پایهی گذرد که بعد این پناه استوار نظم روی او قرار گرفت اصلا. قبل از رودکی شعرهای بودن ولی هیچ کدوم طوری نبودن که بتونن یه سنت قابل پیروهی درست بودن و در روزگار خودش گفتن استاد شاهران جهان کسایه مروزی رودکی در سال 329 مورد سال 329 خیلی سال مهم. روزاکی در سال 329 مرده احتمالاً رو فردوسی در همون سال 329 یا 330 به دنیا آمده و صغرا صغرای حضرت صاحب الامرم در سال 329 تبدیل شد به قیبت کبره سال قیبت کبره و سال منیز سال چیز سال تعلیف کتاب کافی محمدی عبوب کلی حاضر کنم که کسای مروازی 341 به دنیا آمد. یعنی چند سال بعد میشه 11. 341 چه سین تو واته سال؟ چهارشنبه دو روز واقعی از شعبان به اومدم به جهان تا چه روزی ام چه کنم؟ سرود خوبی اما شادی کنم به نعمت شما. این آدم که 11 سال از مرد رودکی تون اومده میگه رودکی استاد شاعران جهان بود صد یک از بای تویی کسایی یرگست یرگست یعنی هرگز و همینطور دیگران خیلی خیلی زیاد خیلی زیاد راجب رودکی شعر گفته شده و ستایش شده همه ستایش کردن شعر تزمین کردن آوردن بعد از رودکی هم، فرد و, و به هر بزرگ روزگار ما، سه تا قصیده در معد فرد ورسیده کنم که قصیده ها یکی از یکی زیباتر تر، البته و همین بها، با, با اون قصیده هایی اون زیبایی، میگوید که ما همه گفته این، ولی حسین مسروب رو از همه بهتر گفتن و من یه تیکه ای از فرین فردوسی رو که مسطور گفته اینجا آوردم حسین مسطور رو به احتمالاً بچهای قبل از انقلاب بشناسن داستانم مینوشه تو اطلاعات ده نفر بزرغاش اونطلا اونا تو شاعر بود و مینم شاعر عجیبی بود شاعری بود که ازش غزل و اینا هیچ نم جز موضوعات ملی این که من هیچ اعتقاد ندارم بگن که این شاعر چون نوپرداز نیست این تقلید از گذشتگان همه یکی هن همه شون میشینن قاف گرد نه؟ حسین مسئول شاعر دریجه یک قضا نمتوست بسید هست شعرات اگر مفهوم ملی و سیاسی و اجتماعی داشت به بهترین صورتی حالا فیضوزی میخونه یه قصیده داره در زم تریاکیست یا عربین به زهرا و به تخم کوچنار اصلا آیت فصاحت ولی یه دونه فصل از در دست سیمنتر سری منتونساسی این حسین مصور یه شعری گفته است در همون سال که 1313 که برای اولین بار هزارای فردوسی رو گرفتن و من آوردم اینجا یه تیکاشو میخونم براتون که یه ذره کیف کنیم بعد بریم سراغی کار جو قسمتی از این مداع هم البته آوردم که کیا گفتن چه کردن چه کردم؟ ولی شعر مسرور یه قسمتی البته این میگه سرگه که اندیشه بیدار بود ز آغشتن سبک با بود به جلبه ما تا در دیدگان بست بر رو بخواب یعنی اندیشه بر میخواب براسود گیتیز غوغای روز همه خفته جز فکر گیتیز و روز کنار خط کهکشان روی ماه درخشنده چون سپاه در آن شب دل اندیشه توست دارش به شاخ سخن عظم پابوست دارش به گفتم دلا ره دراز از دون دو. بگفتا نبا سرعت سیر نو بگفتم چه آری مرا ارمغان بگفتا دم گرم و تب اروان ز گردی که از آن خاکدان آقرم ترا سرمه چشم جان آورم از آن برق رخشنده جان پروز ترا پرتوی آرم افاق سوز و از آن آب حیبان که در جام اوست ز آقشکور سرمدین آقا اوست براه جرعه ای آقارم خوشگوان تو خوردی نفر سایه توتگاه برامد دل از سینم آهوان شتاوان چو اندیشه راهوان ز مرق سهر بالو پر وان کن همه راه راه تای به یک گام کن چو بکشو دل دیده بر ها که او چنین گفت با فربت پاک او تو ای کجاست زمین آ بلند آس ماند کجاست مبادا کنید دست زحمت دراز بدین سر که از وی شدی سرفراز برودند به نفشه به فیرامنش به گل قرقه کن فر تا دامنش به جشن هزار هزاران هزار بیافت یا خونیاگران بهار که بر یاد او چادمانی کنم برخصند و شهنام خانی کنم تو ای عبر فرخونده جالبا خرامنده شو تا در لالزار زهر برگ گل قطره ای وام کن گلابی به سیما جام هر هران کس که آویاد به جنجهش نگاه او از چهرهش گرد راه کجا افتهی؟ ای؟, ای بلند بر برون آو یا بر فرق گردون بتا. من در خورت توست روی زمین زجا خیز و بر چشم دوبران نشین بیا و توی زشهنامه گیتی پروازه ازمین زشهنامه گیتی پروازه است جهان را کهن کرد و خود تازه است تو گفتی جهان کردم چون بهشت از این بیش تخم سخن کس نکشت زجا خیز و بنگر کزان تخم پاک چه گل دمیده است برتر بخاگ نه گل که در مهرگان پژمرد نه خندیده بر شاخ بادش برد نه جور خزان دیده گلزار او نه بر دست گلچین شده خار او بزرگان پیشینه بی ز تو زنده شد نام دیری نشان. تو در جام جمشید کردی شراب تو بر تخت کابوس بستی اغا اگر کاب زاهن یکی توده بود جهانش به سوهان خود سوده بود تو آب ابد دادی نام را زدودی از اون زنگ ایام را تهمتن مکخار خان تو بود به هر هفت خان مینمان تو بود توی دودمان سخن را پدر به تو بازگردد نجاد هنر چو بخت عرب بر عجم چیره شد همه روز ساسانیان تیره شد به ایران درخشی فروزنده بود که ایرانی از پرتوبش زنده بود ز سردی شام پتخلفتو بی افسرد آن آتش انگیز رو برابر تازی زبان دست قرد دهان باز بر فارسی بوی شهر به هنگام سامانیان بزرگ برام شد که بگریزد از گله گورد دیگر باره این آسمان کبور در ترک تازی بر ایران گشود به دوران محمود ایران مدار سخنبر بسی بود در روزگار همه مده محمودشان پیشه بود به کار دیگرشان نه بود هران کس که در مدح بودی دلیر پسندیده بودی به درگاه مبیر یکی را زر پیلوار آمدی یکی راز خسرو نسار آمدی زه استاد خاوانی آرم سخن که فرمود در نامه خیشتن ولی شاعری بود صاحب قبول ز مندوه صاحب قرآن نه تحقیق گفت و نه پند و نه وز که هر پیندانست از آن امسوری به ده بیت صد بدره و برده یا، ز یک قطع اندوستان امسوری شنیدم که از سیم زد دیگدان، زر ساخت آلات خان امسوری منونش از آن سیم و زر سود نیست از اون دیگدانش به جز دود نیز تو را گیتی از شاعران برگذی زبان تو شد گنج حق را کلی نمودی به دوران خیش به باب خود و لغمه نام خیش بالا بود چون تو گوینده را که گردن هد منت بنده را حرام است بر زاده ببر و شیر که گردد ز پسمونده گرد سیر ولی نعمت حکمت و قند ندارد به نانفاره کس نیاز همی داشتی در دل این آرمان یکی آرمان برتر از آسمان که بر چرخ سایی سر خامه را به نظم آوری باست نامه را نمایی به ایرانی جان نیاکان کوشنده پهلوان، مگر ار پیشینه یاد آورند گذر بر ره پیشداد آورند زبان کهنگشته پهلوی، کنی تازه چون عهد کی خسروی به آرمان رنج بردی بسی بیابد چو کوشنده باشد کسی بر افراختی غامت رستمی نشون دادی از حمت آدمی سخن پرچم پردرخ تو بود قلم تیغ و اندیش رخش تو بود توی دومین کاغه روزگار درخش تو شهنامه نامدار گروه اهد زخاک را پاره کرد پی تازی از کشور باره کرد تو ایرانیان را شدی رهنمای به فر فریدون و راه نیاد خدایت بدون کار پیروز کرد شب تار ایران به تو روز کرد شگفت دار چنان همت نامدار که سی سال بر جای ماند و بار نه پیری تو را کرد در کار سر نه از بینبایی شدت روی زر. تنتگرز پیری گرانخیز بود دماغ جوان آتشنگیز بود زجا خیز و بنگر که در خاک توس، بدست زمین نیست بی جای بود اگر بیمت از تحنه انصریست زمانه نشسته پی داوریست. چه ترسی که میمندی زنده است هزاران چو میمندیت بنده اگر شاهت از پیل خود بیم داد وزیر دقل جای زر سیم داد چو تو بیده غفراشتی برگوار چو محمود را مات کردی هزار گرد بستن بند تو سارزوست خراسان نام تو پر آوروست برآمد یکی نعره از غار خاک نه از خاک از آن مرقد تابناک به گفته گران مای فرزند من ز پشت سخن تا پیوند من هماورد من در همه خاک نیست مرا از چنین خاکیان باک نیست مرا زنده پندار چون خیشتم من آیم به جان تو من آیم به جان تو آیی به درودم فرستی فرستم درود به بیایم ز گمبت پرو دعای تو بر هر چه من آمین کنم تا شود مستجا چون مجده قیبم آمد به گوش ز شاه سخن یاز پر رخ بر سوی دادار دست که ای آفریننده هرچه هست نگهدار دار اورنگ جمشید را قوی پنجه کن شیر و خورشید را به ایران فروب کوهن تازه کن جهان را و زنامش براوازه کن البته این دنباله هم داره ولی خب اینجا واقعش من قد کردن واقعش بعد ستایش رزاشا هست تو ستایش نامه های پردوسیت و از نیرفا یکی از بهترین ستایش نامه است که از پردوسی شده و خواستم که ببینید این فیض نمید کنم که این که این شخص، این, این همه شاعر، اینقدر مورد ستاش خورده که این یه سرگی داره دیگه، سرگی داره، یه داره و راجع به این که کتابش هم چه داره و چه وزید داره واسه همین مطلبی ارز کنم که هیچ لزومی نداره ما دلائل خیلی علمایی یار کنم که یه جون عدادیت بگیم، فلسفه بگیم، رم استعداله‌های عجیب غیب کنیم خیرها. این شوهرانم کتاب خیلی، بزرگی، شهست هزار بید. این که چاپ نبوده که. این چطورتن می‌نوشتن؟ این نوشتن این دو سال مثلا توی می‌نوشتن. خدا بیا مارزه مرمون، جواد چریفی شوهرانم امیر کبیر که زیر نظر رو بنده چاپ شد. بنده می‌دام هفت سال جواد شریفیم شاهانه با... بود و هم می‌شکرده این رسیمه بشه. خب این دستماز میخواسته اون کاتر نمی‌م نوم میخواسته. زن و بچه داشته، از این رو نوم میخورده. بعد مملکت ما هم که شروع بلو بوده. نمی‌دونم. اوضا حوض می‌شده هر روز. آسای آرامش نبوده. یک کسی دستور می‌داده. باید یا وضعی بوده عزلش می‌کردن مالش رو می‌گرفتن هزار مانع بوده برای نوشتن کتاب این بزرگ آدم که نوشته مستخربینم می‌رفتند و تمام این احوال با تمام این احوال پیش از 500 نسخه شاهنامه کامل دست نویس که از اول تا آخرش هست برده هست، بیش از پونسد فقط در کتابونه های عمومی است. یعنی کتابونه هایی که شاهنامه هاشون رو فهرست کردن، فهرستش شده ما دیدیم بله در دست اشخاص، در کتابونه هایی که فهرست نشده در گوشه و کنارم چقدر هست، خدا میدونه بعد ناقصا، این اگه بخواد به حساب گرد که لا تو حد و ولا تو این کتاب، این گندهی، این همون مدت نوشته شده این کار آسون که نبوده این اون وقتش اما بعض که چاپ شروشون هیچ دلیلی نیست که شاهنامه دو بار، سه بار، یه بار، دو بار چاپ نشه از اون روزی که چاپ شروع داره الان اینجا همین کتاب فروش که ما رفتیم خنجور چاپ شاهنامه همونجا بود. این، اگه نهرن که چاپ نمی می خرم. مردم می خرم. پس معلوم میشه که میخوان که می, که می حالا بفهمن، نفهمن یه خودشو بفهمن اصلا هیچیش من من نمی دونم ولی کتاب هماسه شماره دو گرش آسنامه اسدی پنجا سال باید فردوسی هم ساخته شد شاهرش هم همشهری فردوسی هم استادم بوده، هیچ حرف در استادیش نیست گرش رسومه اسدی دو بار تا حالا چاپ شده فقط یه بار در سال 1314 اونم به خرج رزاد فرهنگ مرحوم حبیب یک ماهی چاپ کرد این نسخهش تا این اواخه تو بازار گذ یه بارم دو ستار دوش دواری چاپ کرد هفتش زار بیت بیشتر نیست شاهنامه شست زار بیتی سالی چند دفع چاپ میشه گرش رسومه از،, از از بعد به اختلاع سنت چاپ داره دو دفع چاپ شد یعنی چی؟ یعنی از اون ما حال تازه این چه؟ دوست دیگه باقی دیگه شو، فکرشو بکنیم و عجبتر اینه یعنی تا وقتی فردوسی اینو نساخته بود می گفتیم که خب شعرها سرمش نداشتن یه سرمودلی می که روی اون روش دار از روزی که فردوسی شاهنامه رو ساخت، بازم تالا یک نفر به حریمش نزدیک اصلا نشود. نه اینکه نساخته، اصلا،, اصلا نزدیک نشودن به حریم این فردوسی. حال دلیلش هم من میگم، موضوعات شاهنامه بسیار محدود جنگ و حوادث و توازد. به, خود، به خیال فردوسی تاریخی، که بیشترش پهلوانی است یه قسمت چند تاریخی است، البته که حالا برسیم بحث میکنیم یه تیکه ترمیم، یک صرفان شامان تاریخی است ولی قسمت بیشترش هماسه است و هماسه میدون جنگ و جنگه و عرض نمی روزد و خورده و اگر مطالب نیگر هم هست اگر از یه عشق چیزی صحبت میشه باز برای اینکه که پهلوان به وجود بیاد و بیاد میدون بسند یعن این دارم که عاشق رستم و چه و چه تا اونجاییست که این وچه زایده بشه دیگه بعد مادر اصلا میره کنار به یاش خونه ایش خواهنه تمام میشه هم می... این موضوع بسیار محدود رو شهر دربار پادشاه شهر میدون جنگ یا مقدمات میدون جنگ و احیالا مزاکرات سیاسی و همثال اینا تمامش در یک بخ، به یک وزن، بسازه با اون بخ، نه تنها آدم درس فهمیده فهمیدهی مبتله از چنیدنش خسته نشید، من یه بنده خدای مرشدی بود، نقالی بود که اتفاقا نقال خیلی برایی هم نبود، برای اینکه اگه خیلی نقال هنروندی بود، می‌کفتم خب هنر خودشه یه مرشدی بود، انشالله که زنده باشه، قطیرهایی تو نزاوات توی قربخون نر میگفت اون تازه میگفت که میگم خیلی هم نقالی همچین گروه بود زبوندالی نبود میگم من نمیدونم چه سری تو این کلام حکیمه به محضه اینکه من سلام بلب میشه، میگن تلویزیونه ببر تلویزیونم اون روزگار با اون برمه که که دوشتوان بساط میگفتش کن نمی‌کنیم، مردم ارمان بخال و چخال و و مردم بزرگ‌تران که ملازه این، به این ترتیب جز داشتن نبوخ یعنی یه چیز همتا و یگانه نمی‌شه باشه برای این ترانواره انشالله اگر اونس گرفتید باش و اگر اولفت گرفتید و اگر شروع کرد به خوندن و اگر آشماع شدید یکمین که بتونید خودتون دست دیگید، بخونید میبینید که نه تنها ملول نمیشاهدن اصلا سیرمونی نداره از زمین نمیتونه بگذاره از بس کشنده از بس جاله و عرض کردم یکانه هست و سر و همینه البته دلایل متعدد داره که من حالا فعلا روی اون دلایل متعدد الان نمیرم بعد شاید پیش بیاده بگم الان چیزی که میخوام بگم اولا معنی خود شاهنامه است. کلمه شاهنامه یعنی چی؟ کلمه شاهنامه دو جز داره میدونید که دو جز داره شاه و نامه ارز کنم که نامه وعنی کتاب کتاب و نام است. هر دوشم وعنی نوشته است. کتاب و بلند و مختصر و مفصل نداریم اون که حالا ما ورا سلارو خواغاز نمیسی روش میگیم نامه مقاله نیست ولی نامه یان یعنی چیزی نوشتیم مفصلا روش گذازم به همین دلیل از قدیم قابوس نامه داشتیم نمی سیاست نامه داشتیم و همثال اینا حالا مجله در میاد ایران نامه یعنی کتاب معرفی ایران کتاب هم همینطور کتاب هم به معنی نامه هست و مراسله هم به معنی نوشتهی بریم بنابراین نامه یعنی نوشته این کتاب میمونه شاه شاه چنان که میگیم دید صفته اول اسم نیست اسم اونه که بابا نه نیادم اسم بچهشو بیزاری بیزاری بسی اصلا بسید هیچ که از اسم بچهش نمیداری شاه و آدمی هست، اسم میداره، بعد این شاه میشه جا شاهی میفته، صفتی بسیاری از صفت ها هستن در زبان فارسی که به جای اسم به کار میرن مثل استاد، مثل معلم، مثل بقال مثل همه یک چیزایی که شغل و دلالت به همه صفته ولی به جای اسم به کار دیگه که باقاله گفت که نمیدونم صفت به جای اسم شاه هم به جای اون اسم و اون شخصی که متسردی اون مقام هست بکنه ولی این تنها نیست آخه شاه به صورت قید در حقیقت قید تفضیل قید, قید مبالغه در بلندی و بالایی میاد برای هر چیزی شاهکار شاه میوه شاه راه هیچ کدوم اون مفهوم شاه و اون معنی که وظیفه ای داشته بیشت اداره ای و داشته کاری اصلا نیست به معنی نوع برجسته از هر چیز رو کلمه شاه برشت کاری در ضمن به معنی شاه هست حالا شاهنامه هر دوی اینا رو می‌شوهند که یکی گفت که نامه شاه کدوم شاه؟ جنس شاه این شاهان دلیلش هم این بوده که می‌دونید که قرن‌های متوالی هزارها، رژیمی که تنها رژیمی که دنیا وجود داشته سلطنت بوده که از همون دست جات کچلو و قبیله‌های شروع شده تا تاسیسی دولت رو کشور از یعنی رو یه نفر صفر است و اون است به عنوان حالا الان مد شده به خصوص بعضی که سو... افکار سوسیالیستی اینا ها که اینا نمجبباران و تا... تا... احوال اینا رو میگن مردم و کار ندارن، نمیمتیز ندارن ولی روز اول اینجاست که نبوده این به عنوان سمبول اون ملت و اون جمعیت و اون مردم این شاه شناخته شده و احوال شاه رو تو می‌گفتن در حقیقت احوال کل اون مردمه که می‌گفتن و به هر حال تاریخ تبری مثلا تبری مولا بوده آخون بوده اصلا درباری هم نبوده کتابش نمیشه تاریخ و ول و قبل از تاریخ پیغمبران و پادشاهان تاریخ پاچهان، تاریخ جامعه بوده حالا البته این کسی گت پیشینه به شهر عربالی یک نیست و اون ملت با این افکار امروز، این درست نیست ولی درست با این افکار امروز داوری کردن درباره اثر هزار سال پیش هم درست نیست اخو اون ذهن و اون فکر و اون زندگی و ما ما هیچ خودوم جزیات اون زندگی رو به تصورمونم نمیاد اگر یک از ده هزار گوشش توی یک کتاب چیزی نرشدش دوشید شما الان شاهد این انقلاب اسلامی بودین همه در تقیید عمرتون انت... چقدر خود این ها اصلا شما ها دیدید؟ دیدین اصلا اولا ندیدید همه گوشه هاشون بسیار چند تاریک. بسیاری از سهنه هاشوند یه نفر بیشتر شاهد نبود باقی بعد هم الان حالا همونه هم که دید نمیتونیم که بگیم ما چطور ما میتونیم وضع از اجتماع دوره فردوسی دوره حافظ دوره سعدی امسال این رو کنیم و بعدا بگیم که ولی این کرده این این درست نیست نه هر جهت یا نامه شاهان مراده یا اینکه که اصلا شاهنامه یعنی شاه کتاب ها یعنی بهترین کتاب ها همین جوری که شاه میوه یعنی بهترین میوه ها شاه بهترین نام ها و بهترین این معنی رو هم نیکنه داشته باشه بار اول عرض کنم که این بار اول اسمش خدای نامه بود خداینامک در فهلبی و خدا و خداوند برنی صاحب و مالک اصلا اون خدا هم که میگن خدا یعنی مالک تمام عالم، خالت هم عالم من رختم و فرزند من آمد خلق و ست. او را به خدا و به خداوند سپردن یعنی عربا خودها این آمک پهلوی رو وقتی خواستن به فارسی ترجمه کنن به فارسی و عربی هر دو یعنی اول که به عربی بعد دیدن که چون خدا رو در فارسی برای پروردگار گذاشتن دیگه صورتی نداره که او همون رو برای شاه بذارن خداهای نام رو دیگه نمیست بذارن در عربی ترجمه کردن سی ارول و این رو هم یه ایرونی تبا به در ایرونی مادر بیرونی که در سن سی و چند سالگی سرش هم از بابات ممریکلش از دستاد یعنی عبدالله بن مغفق روزبه به سر به پارسی این کدای نامک رو از پهلوی ترجمه کرد به عربی به نام سیرال بلوچ و کمین بمانویه نموند متاسفانه از به این دراب ولی هایش در کتابهای ادب هست بعد هم اول بار این داستان ها و به صورت کتبی در آمدنش از صورت شفاهی در سال 346 اتفاق افتاد. گفتم فردوسی در حال در سال 329 یا 3330 دنیا آمده یعنی 15 سالش بوده که برای اول بار این, این داستان ها از شفاهی به صورت کتبی محراش شده و قصه باز از این بوده که یه مدتی قبل باز, باز پیمن میخوره با رودکی رودکی رو امیر نصر سامانی دستور میده که کلیل دمنه رو که وزیر امیر نصر فارسی ترجمه کرده بوده رودکی منزون بکنه رودکی هم این میکنه میکنه به او یا فردسی م کنیم بسه. به پیوستگو یا پراکنده را رویای امشاره به سفتیم چنین در راکننده این ترجمه این منظوم شدن که بوده نه از حوادث بسیار بسیار عظیم تاریخ ادب ایران یکی از حادس سر ریشه تمام حوادث ادبی دیگر اولاً، هیچ کتابی، هیچ قصه‌ای، هیچ کتاب تاریخی، هیچ کتاب هماسه‌ای نیست که از این کار تعلیف شده باشه و از اهمیت این، این داستان رو نقل نکرمیشه از جمله در شانان فردوسی فردوسی به بحانه این که در روز کار انوشی روان از هند آوردن به ایران داستان کش میده تا جایی که بوده کشت شد دلیلش این بود این کتاب به اندازه توفیق بده کرد. اولا که به روایت ده هزار دینار و به روایت هشتاد هزار درهم او داکی سله گره و برای اینکه درست بفهمید که ده هزار دینار چقده بنده عرض میکنم که هر دینار یه مسخال تلاست یک مسخال طلا معادل 5 گرمه یا اونجوری میخواید حساب پنج اونجوری یا اینکه یک من و چل مسخال ده من میشه چیزدار چارسد مسخال ده هزار حالا گرم این درود پونزه نزدیک پنجاه به روایت دیگه گفتن که چهل هزار درهم خود امیرنس داد چل هزار درهم هم سرشکم کرد که امیرانش بدم. هم. اشتاد هزار. درهم هم یک مثخال نقره است. بنابراین پنج گرم نقره اگه میدیرید میشه چارسد هزار گرم. این چارسد کلومتر. یه خربار رو یک سکمه خربار. کتاب رو هم حدس میزنن که در حدود سه هزار بگید. این حدث و محروم استاد من، محروم بعد زمان فروزانفر در وقتی که شاید سی هم نبوده، کتابی نوشته هم سخن و سخن و سخنبران و اونجا دقیقه این حادثه که اشاره میکنه به حادثه کار روداکی نوشته که ظاهران این کتاب سیزار پید بوده و بعد در هاشی میدونیسه با استناد این شعر فردوسی فردوسی میگه برای شاهنامه خودش میگه زعبیاد غرار دره سی هزار سخنهای شایسته غمگسار اگر بازجوی از او بیت بعد، همانا که کم باشد از 500، نبی نبیگند کسی نامه پارسی نبشته به عبیاد سد بارسی بارسی یعنی تا فردوسی میگه نامه پارسی سه هزار بیتی بیشتر میست و این اشاراست به تیره درنه که معروب ترین نامه اون روزه و این شهرت العاده ای که این پیدا میکنه کنه میشه که کلیله به قول مقدمه شاهنامه عبو منصوری که ازش حرف میزنیم زنیم یه کلیله در زبان خورده بزرگ افتاد و نام او بدن زنده گرشت نام امیر یک چنین انعام و اکرامی البته شاعر صاحب تا صاحب تخند رو بر سر شوق هم میاره که بنشینه این کار مهم میگونه کاری به مراتب مهمتر از کاری کلیب و فردوسی یه جمعی که میگه میگه من نشستم این کار کردم همه این کار کردم که تا روز پیری مرا رو بردهد زر و گنج و دینا رو افسر دهد هم حیثیت میخواسته هم هم نمیخواست از گوشتگی بمیره این که دیگه مشروع ترین خواست آدمی است که سن هشتاد سالگی بگه من هیزم ندارم هیزم من وقتی 15 سالم بود هیزم خوهربار سه تومم اون هم هیزم ندجاری خوشت اگر نه هیزم عادی خوهربارش دو تومم حال روزگار فردوسی هزار سال پیش از اون میگه جو و قرمه و هیزم ندارم اون زمستون سگ گراسون که سنگ که نماندم نمکسود و هیزم نجا بود نمکسود گوشتی بوده که قرمه میکردن نمیدونم دوستان جون قرمه رو میدونم چیه چندتشون نمیدونم در ایران مخصوص هنوزم در نواحی روستایی این کار میکنن ولی مرسوم بوده که فایز یه گوشند و پروار می‌کردن کاملا چاق تاغ شد بعد سرش می‌بریدن تو دنبه خودش درخ می‌کردن گوشتشو با نمک بسیار با وصفنشم الصاب با نمک بسیار دنبه سرخ می‌کردن می‌گفتن تو چنبه و اینی می‌ذاشتن و زمسون خرد خرد اینو می‌بریدن و خورشت درست می‌کردن آبگوش درست می‌کردن بازا درست تمش نخورد. میکرم. من یادم بچگی در دوره پهلوی اول، اوایل دوره پهلوی اول، سال 1318، که در بقالیای محله ما یکی از چیزایی که داشتم قرمه بود. مشتاق محمدی بود این قرمه دور. میزد‌الدولام بود اون وقت، فروشدار بود اونم قرمه داشت، من می‌پریدم با پدرم یکم چرسی را اون قرمه دیدیم. من دو سیب قرمه دیدم گرفتم می‌بردم، آبش می‌کردم، خورش می‌کردم. این روش میگنه نمکسود در ذننم بگم که این صنعت رو سربازان جنگ های سلیبی، سربازان اروپایی که رو جنگ های سلیمی آمده بودن از مسلمین یاد گرفتند و آمد شد صنعت کار باستازی فعلی با, با این آداب و ترتیب این صورت یافته همون صنعت کنسر کردن دوشته که هنوزم به صورت‌های نسبتاً ابتداییش در الجزایی رو اینجا هست و به اون آدم ساز میگن جزدار خواهده جزدار یعنی کسی که کارش هم کنسرپ کردنی گوشته و بعد که آمد دیگه چیز کردن و خیلی خیلی اینا تغییرات دادن و تغییر شکل کردن و کارهای مهم کردن ولی اصلش از اونجا هست وقت بعد به صورت کالباسی که در روسیه و هرگشت محلوز دست ما از مترا قلمی کالباس روسیه می دن ناماندم نمکسود و هیزام نجو نچیزی چیزی پدید است تا جو درو تو درو اول اولین اولین اول اول که عمل میاد جو سودتر از هم. نماندم، نمکسود و هیزم، نجو، نشیزی پدیده از تا جموع درو دو دست و دو پای من آهو گرفت آهو یعنی ای یکی از معانی آهو، آهو یعنی ناخو، یعنی ای نیغیر از اون آهوی هیمون، بسن بیشتشون با هم فرمشون دو دست و دو پای من آهو گره توحید دستی و سال نیرو گره الا ای با چرخ بلند به پیری چه داوری مرا مستمن چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بزاشتی مرا خاص هر نپروردیا نه پروردی پرورده بودی نیازو بودی تو نمیخواستن گشتی و که یه آدمی با اون شعن و و با اون شعر و با اون تاب تاب نیست که مخاطبی که سر توش گوهر بگیره اما با, با تمام این احوال اون ای که کله 9.9 درصد از جماعت مردم ما هست که سلطان معمود قرار گذاشت و با فردوسی و چبیاد هر یه بیت می‌نیزازه یه دینار طلا می‌گیره و تازه چیزی قابلی نبود در برابر که رو دکید قابلی هم نبود یه دینار طلا میگیره بعد نقره دادن و بعد همچی شده و که, که،, که در روزه 150 سال بعد از مرگ فردوسی این بسته رو نوشتم تاب چهار مقاله چهار مقاله قدیم پرنی کتاب 20 کناجر فردوسی حرف زده 150 سال بعد از فردوسی این افسانه رو نوشتم داره آره میخواستن چیز کنن و بعد نقره داد طلا و بدفردوسی قبول نکد و برداد به همومی و نسیداد به همومی و نسید و پول آوجود و دفتیش در رفتی، نه شعر رو بره اصلا چیزی وجود خارجی از اجتحالات دلیلش هم خیلی ساده است شانه برم سلطان محموده و این نیست خیلی خوب سلطان محمود در چهار سد یک مرده در سی سد و هشتاد و هفتم ساله در سال سی و هشتاد و سلطان محمود سپه سالا رو خراساند. حالا همون سال اول هم که نایمده با فردوسی قرار میزهد تو شاید این مدتی هم بوده بعد به قول آقا قرار گذشد در سال سی و هشتاد و هفت فردوسی 22 سال بوده که چانمهش رو داشته میساخته و سه سال بعد، از در سه سال بعد از سپس سالوری محمود چهانه تمام میشه بعد 25 سال بعد یه ده سال دیگه صرف روتوش کردن و ادیت کردن و افزوردن مقدمه و سایر مسائل و مقدمات داستان و ترتیب دادن این به صورت کتاب نکنه محمود کجا بوده اون وقتی که ایشون مخاصشان ها به سزیدوش قرار گذاشته؟ دو سال بودی، فردوسی، فردوسی علت اینکه این کار کردن این است که در دوره سامانی یک چنین نواخ و انعامی رو دیده فکر کرده خب منم کار مهم تر از این رو بکنم همه زندگی شما مادی و معنوی رو رو این کار ملک و آب و بساط و زندگی و 35 و سال عمر و جوانی و چقدر بدون دنبال این نقال ها و قصدگو رفته چقدر برشو آورده شراب و کباب بهشون داده و مرنتشون کشیده و نازشون کشیده و آورده چیزشون کرد تا یه قصد رفتشون میگیره و بعدم به کار ملکوهابش هم ملکوها نرسیده پوسایا ها بردن و خوردن همه چی مایسوزش کردن بدبختو که موقع پیری دیری هیچی این پک کرده بوده که من چهانام رو وقتی تمام کنم دولت سامانی که باز من از برگم استاد خودم مرحوم جلال الدین همایی شنیدن که فرمود که هر کار بزرگی در ایران اتفاق افتاده پایه در پزر محمود که توی بازار فروخته بودن به بندگی سباکتکین رو و خریدارش هم تازه بنده‌ی ترک دیگه سامانیان بود، درام التکین و پسر محمود، سلطان مسعود، هنوز تو تاریخ به‌ی هست که وقتی می‌خواست حرفی رو با اینکه سه پشت چیگه پادشا بود مثلا، وقتی می‌خواست یه حرفی دیگر اون نفهمه من ترکی می‌گفت به اون آجب بکنه، درپنه و بساته شد بلی که ترک، بعد از اون ترک همانای سلجوبی میان که ت یان گزار سرس سرج است سواد مثل من سواد نداشته ها عبه حالت بود حذ کنم که میگه توش تو رو وس بود نیست توش چنین بود یه خطی چ توش چنین بود بر شکل چماقی به جای امضا و پراف کردن رو به بنده بی سبکتکین رو و خریدارشان تازه بنده ترک دیگه سامانیان بود نامه التکین و پسر محمود سلطان مسعود هنوز تو تاریخ به حقیه هست که وقتی میخواست حرفی رو با اینکه که سه پشتی پاتشا بود مثلا وقتی میخواست یه حرفی دیگر نفن من ترکی میگفت به آجب بکن درپونه بساتش برای دیگه دیگر نه نفن بعد از اون ترکیمان های سلجوقی میان که ت بنیان گذاره سلسل سلزیزی اصلا سواد نداشته هیچه نه مثل من سواد نداشته ها اله به ولد نبوده ارز کنم که این که توقیهش دو راحت و سدون توقیهش چنین بود یه خطی کششده توقیهش چنین بود برشکل چماغی به جای امضا و پارافت کردن, و کردن یه چیزی مثل چماغ میشه این بالای اینم بالای بعد از سلجوگیا خارستراین آمدن که گلامان سرخرید از سلجوگیا بودن تا زیده اونا هم همه شکم که اتسز و نمیدونم خلان و نوشتکین و اسم همه کردی خارسترایر هم که الان باید مغل اومد که قم و آمد و قم های دیگر پاک ببرد سوزنی باید که از پای برادت هاری مغلا اومدن و یه ست سالی اونه راش بشتن و بعد تیمور تیمورتش ببرد که معروم استادوان می‌فهمید که درجه به درست از کنگی‌ست برای اونا دیگه در عوی مسلمونی نمی‌کردن و بودایی بودن دیگه بوده بودن برای مقدس نبودن نه محصول برای مقدس بود، نه قرآن برای مقدس بود نه کتاب، نه حساب، نه ولی این مرکه شایاد عرق می‌خورد مثل خر و اول است که در, در اسلام در احوالش کلمه عرب آمده ابن عربشاه میگه که برای او مشروعی از تختیر شعاب به دست می آوردن و او عرب، او رو می آمده اشون زهر ما بعد حافظ قرآن بعد میوه اومد کوفر داد قتل عام کردم که پدر سخته هاشون چرا با امام حسین بی وفایی کردیم؟ بعد, بعد اومده مثلا اون قوم و کاشون نه پدر هاشون ها شما خارجی از شما رافزی هستین یعنی شیه ای این به جرون تشایی بودن قهانه می گرفت تو این هم ها شمونم سالی بودن بعد سخویه که درش اصلا تورک زبون بودن در دربار اصفهان این از خنده داره در دربار صفافیه در قلب اسماحان پادشهان صفافی ترکی عرفی زدن و سلطان سلیف و بسمانی در بستندنی پارسی هست از شاه اسمایل اول و شاه اسمایل دوم دیوان ترکی در دست هست شاه اسمایل اول متخلص خطایی و شاه اسمایل دوم متخلص عادلی پاس سلطان صدیم بیوان شعر فارسی گردانده اینا هم اون دوره صفویه بعد از صفویه یه چند پنج سال این خان بود که اون لور بود نادر شاه افشارم با اینکه کرد بود تمام مکالماتش رو ترکی همه جا که میرفت ترکی حرف می‌زد و بعد قاجارامن قاجاران ترکمنه قاجارام با مظفرالدین شاه داشت از هرج لهجهش شدید داشت و اینا و بیه اوستاندار از الواجهان بود از اونجا با یه مجتمعهت پبریزی که فارسی در اقل هر سات نمیشه حالاته نمیشه ولی هر ساتنشو بلد نمیدن میومدن تا میمدن فارسی هر درست یاد بگیرن رفون اون شامی مردن یه که واسه از تبریز میرد برهان این وحث این زبون فارسی بیدنه این مدر به وقت تموم وقتی فقط محمود ما محمود خریدار این ماجرا اصلا نبود. شاید هم یه کاری کردن بعد یه قراری گذاشتن که چیزی بهش بدن بعدم ندادن ولی اصلا اون صورت اون افساد عدا نیست. و فردوسی تا سالیان یعنی سال دنبال یه کسی میگشته وقتی شاهنامه داشته تمام می‌شده هم دنبال این بوده که اندی کسی رو پیدا کنم که این ها رو به نام او بکنم چه بکنم مثلا به نام کسی نبوده وقتی شاهنامه رو میسا. بنابراین ها به کلی احسان است، و از ذره تاریخی مطلقه قابل تطبیق نیست اصلا و بلی سفاریا که سفاریان پارسی بود ولی اونا چه هم نرسیده اونا هم چون سال تا همان تکون بخورن امرلیز و یعقوب بعد یک کلاشون کرده پس درابنی در تمام اصلاقی بعد از اسلام در ایوان فقط دو تا سلسله باشی زبا بوده و پهلاویان بودن بیگه پهلاویان بودن کریم خانم به هفت زندیه و تاهریان تاهریان عربی حتی زدن اونا که وچی و سامانی دویست سالی ادامه پیدا کرد مسئله مهم این که در کارای در... در... فرهنگی همیشه در روبناست اطاره رو بنایی 40 50 سال بعد از استقرار یه رژیم میتونه تازه شروع بشه اینطور نیست که اون ساعتی که 10:00 بتون از اون ساعت تغییر میدن ولی اثرش بعد ظاهره این هست که اون دوره‌ای که شروع شد این کار دوره سامانی بود که قرای اساسی هم شروع شد مثلا تاریخ‌خوانی ترجمه شد تفسیر تاریخی ترجمه شد نمیدونم همین شاهنامه جمعوری شد که حالا تفصیل جماوری شاهنامه رو میگم برحال حالا مسئله بیشتر الان مسئله منظوم شدن شاهنامه بود و سیل فردوسی و کردم که این ترتیب بوده مطلق آرت نداشته منشه اصلیش همین کتاب شاهنامه عبو بوده که بعد ازش حرف هم زد و یه مقدار زیادی هم روایت هایی که از دیگران میشنیده و بسیار جاها میگه کسانی که براش داستان ها رو باید میکردن یا دهقان بودن که ده خود فردوسی هم دهقان بوده و میگم دهقان چی بود که معنی امروزشون نداره یا موبد بودن چون موبدان هم برحال دانشمند بودن من, من یه چیزی به شما بگم اون این است که تا پیش از رونسانس در هر جای دنیا که شما تصورد از چین و تبت بگیر تا اروپا و ایران و اندونیسی و مالزی و شمال افریقا و جنوب و افریقا و هر جای دیگه تا پیش از رونستانس مدرسه که میگفتن یعنی مرسه آخون فقط ساسانیان همینطور شاه و دبیران و کارگزاران دربار پیش آخون بود برند از اصلا معدارس قدیم خودمونم تا با قبل از این که علوم جدید دایر میشه منجم و طبیب و ریاضیدان و جغرافیدان و فیلکوب و همه این اونجا تربیت میشه و دیگه همه رشته ها اونجا تربیت میشه و در ایران که تا پیش از مشروطه مدرسه مطلقه ها آخوندی بوده یعنی درس میخواست بکنه باید باید مرسه آخوندی درس میده و به همین دلیل موبدان هم که روحانی بودن طبقه با ثبات و طبقه چیز بودن که شهازاده ها را اونا تعلیم می دهدن دبیران هم اونا تعلیم می دهدن بنابراین فردوسی غیر از محافظ مکتوبش تمین خدای نامی یکیش بوده و بعد باقیش هم عرض می تواند بوده یه مقداری هم محافظ شفاهی داشته که اینا یا گویندهش دهقان بوده گفتار ده خان یکی داستان به تیمندم از گفته باستان یا موبت بوده زموبت به داندونه برداشت یا کرستن بر از باندار یا رفیقش یارش یار میگید قصه قصه بیژن منیجر رو یار من گفت برای من شب بود و خوابم نمیورد شب تاریک بود و حالا هم داستان بسیار زیبایی داره این تاریکی شب اینا برایت استحلال اول داستان چون که داستان, داستان داستان زندان است و داستان چاه دست به بند هست و زنگی هست و شرح شب بسیار هوناکی رو اولش میده شایدتون چون شبه, شبه رو شسته دو بی نه بحرات، پیدا، نتی اینکه از همون از همون ارتدای داستان شنونده بفهمه که قصه چیز برحال یه چه این شبی من خوابم نیمت و یارم گفتم که یک مهربان دوستی داشتم در خونه گفتم پشو شمی بی افروز و بیا و بیار رو فلان اونا گفت چیه چه خبره که شب تیره خوابت نیاید همین گفتم نخوان نمیاد و رفت و شم آورد و می آورد و نار و ترنج و بهی بهش. بهی ببشت بهی همون به به بوقت عدایش بهی و شروع کرد و رود نواخت و چنگ زد و می داد و حرفا رو بعد گفتم که داستانی برای من بگو گفتن این داستان میگم ولی به شرط اینکه وقتی شمیدی به نظم از دفتر پخلایی نظم بنابراین گروه های بعد جاهای دیگری روایت میکنه از کسانی یکی پیر بود نامش آزاب سرب که با احمد سل بودی به مرب تجا نام خسروان داشتی دل پیر و بخت جوان داشت ربایت ملیدی داشته این آزاب سرب. و اینا رو پردوسی از اینا یه عمری میگیره و جون میکنه و سی سال میفرزنه این پار تا این شاهنامه بود سی و پنج سال اندر کتاب خیش ر. ماند از رنجی چنین گنجی بدیم نین زنده شد ایران از این شهناب مگرچه شاهرش خون دل خورد و ندید از بعد الا مدبری جود محمودی در آغاز جهانگیهیش بود چون پزوم شد گنج راوی رفت و آمد محصری ضرب کف ناور زیرا فرمایان بودن بسته همچون که دل بر مقش زر جا برای بعد بر من جعفری ما اشته باشم درمال باهاره نصیب دیست از باهار میخونم برای بعد به نام کلو سیده فی جوف الفرا به عربی یعنی همه ی شکارها در شکم گورفتره نه نا محمود قرار داشت نشانا اون دوره محمود تموم شد اون این که خطاب چهار مغلی هم سنگ داد بستن که به فرض اینکه این کارو بکنه ما انقدر بگیره چند چیزی نبوده عرض کنم که ارزیده‌ای داره به کل مستید فی دوفر یعنی همه شکارها در شکم بورهره maksud این است که اگر کسی بخواد بره صحرای شکاری بزنه یه کبوتر بخواد بزن، یا یه خرگوش بزنه یا هر چیزی یا آهو بزنه. اگر یک گوره خرید گیر شما حد ضعت مثل اینی که همه اونارو رو زده یه چیزی هم اضافه زاد این ترجمه فارسی یعنی در فارسی مثالی که ما داریم چون که صد آمد 95 شده از وقتی که سلسله جلط قرار رو ترجمه کنید میشه چون که صد آمد 95 بشه مسعود بهارین است که شاهنامه رفیق داره آدم همه چیز رو داره تا بعد من این قصیده رو براتون میخونم ولی حالا اجازه بدیدین یه چند لحظه نفس بکشید این میکنه کپیش کنید بدن یکی یک کتابی شهر احوال فردونسیست به زبان انگلیسی آقای دکتر شاپور و شهبازی نوشته کتاب خیلی خودست کتاب کچیکیست خیلی بزرگ نیست ولی بسیار بسیار کتاب خوبی است برای که این آقا هم آقای خیلی خوبی است سالیان سال هم هست که راجب شاهنامه داره تحقیق میکنه کار میکنه و یکی از کارهای بسیار قابل ملاحظه‌اش این است که سال و ماه و روز تاریخ تولد فردوسی رو استخراج کرده از توی از, از توی گفته های شاهنامه دیونها بود و برای اولین بار چنین کاری کرده ارز کنم که این کتاب رو انتشارات مزده چاپ کرده و انتشارات مزدا همینیست این شاهنامه رو هم چاپ کرده و اینجا بنده باید بگم که متأسفانه ما مردم پوز خیلی می‌دیم خودمون کسی غیره بیدونه اینجا نیست پوز زیاد ولی موقع کار خیلی مرد کار نیست خانم، خانم اینقدر می‌کنی؟ کردین؟ اول بار اصلا اصلا نیمه بگن این افسانه چنیزنی است. ما 8 تا شاعر اولواندهار داریم. یکی فردوسی و تادید تاریخ فردوسی است، نظامی است و, و مولانا سعدی و حافظ که به این مرتبه شاعر ملی کتاب فردوسی رو اول بار یه انگلیسی چاپ دوم بارم یه فرانسوی چاپ سهبون بارم یه آلمانی چاپ و ما هیچ وقت ما یونیا چاپی از شاهنامه که قابل عرض کردن در وازار های بینولو اگلوشید شاف امیر باز خدا امیر باهادور رو بیا مرزه مرد ترک بیلمز که فارسی رو با لهجه شدید حرف نزد و فارسی تقریبا بلد نبود از پور خودش دستور داده بود که یک شاهنامه بنویسند بهترین خط بهترین تسلیم بهترین کاغذ، بهترین چاپ خط امادول کتاب و معروف به شاهنامه امیر باهادور یعنی اون چه او شعورش از هیچ چیز مذایقه نکرد چاپ این کتاب ولی کتاب در درد تو قلب خونه میخوره برای اینکه که فوزالای ایرون یه ای که سندیت داشته بشه و الال در دنیا بتواند بشه استناد کن تا حالا فوزالای ایرون نکردن اون ای هم در هزاره فدروسی چاپ شد ای بود که همون مرد آلمانی شروع کرده بود چاپ کرده. اون اولی اولین چاپ شانوه که مدیسی ارز کرده مده مردی بود به نام ترنن مکر تو او چاپ کرد در هند دو قنبار جیل مول فرانسوی تصمیم گرفت شانوه رو ترجمه کنه فر... به فرانسی بعض اینکه شانوه رو نگاه کرد دیدش که هیچ کدوم این شانوه ها به دردش نمی برای ترجمه آخه یک کلمه رو نمی شده هم نفهمه که نفهمیده باشی خوندن کتاب که نیست بگید دوتا لغت چه بلد نیستم سی درصد چه بلد نیستم خب مهم نیست ولی وقتی بخواد ترجمه کنه یک کلمهش که بلد نباشه هم یک کلمه میمونیم یه مقدار یادینام نمیفهمیم بعد اول نشد چهانوار تحصیل کن حمت اول نشد چهانوار تحصیل بعدم بعد ترجمه کرد به فرانسی وقتی هم خواست شاپ کنه فکر کرد خب من که این جون رو برداشت چانامه رو دو زبانه چاپ کرد، بیلک در روزگاری که در پاریس، دوره ناپولیون سیف هم، در قرن هم که حروفچین فرانسوی با نمره کاری حروف رو می چید. یعنی جیم و چه و په و که گرسه اون جعبه حروفچینی رو نمره زده بودن روی هر هر چنین نمره می زدن می دست بابا اونم می نمره یک رو بذارد بعد سی و سی و پنج رو چون که یه شانوه و هفت جلد این در آمد وقتی که در آمد به عنوان نفیزترین کتابی تا اون روز در دنیا چاپ شده شناخته شد و البته چاپونه امپریال چاپونه بسته لامپراتوری فرانسه ما همین برادرود همین هست که حالا کتابخونه ملی ناشونال کتابخونه ملی با کتابونی هم که الان به نام کتابخونه ملی پاریس هست کتابخونه امپریال کتابخونه سلطنتی این چاپونه هم وابسته بود و همین چاپخونه و همین کتابخونه این چا هر چاپ کردن چاپونه ور شکست هر نتیزه خرج کمرشکن این کتاب ور ولی به هر حال دو منبارم مول چاپ کرد ثبت بان یه آلمانی به نام فولرس آمد با استفاده از چاپ مرد و چاپ مکان و که های دیگری که جاهای دیگر چاپ شده بود شروع کرد به اینکه یه نسخه تازه تصویل شده درست کنه وسط کار مرد عمرش وفا نکرد که چانمه تمام بکن در هزاره فردوسی اون چانمه فولرس چاپ کردند. اون تشت یکی دو جلدی یه در شانومه که مونده بود پوزلای ایران نشستن و برتر روش تولرس باقیش رو درست کردن و معروف میشه آنون چاپ گروخین که وزارت فرهنگ هرشو داد و کتاپوچی گروخین چاپ کرد او رو در هزاره پیزرسی ما پیش علت اینم که چاپ تولرس رو انتخاب کردن دلیلش این بود که یه آقای دیگر یهودیه آلمانی به نام وولف نشست و شاهنامه رو اندیکس کرد یعنی تمام کلمات شاهنامه رو شمرد و نشون داد که هر چند بار اومدم و به چه معانی و توجه بفرمایید که اگر شاهنامه فعلی پنجا و اگر هر به تویتر رو متوسط ده کلمه میشه اون هزار این 520 هزار فیش گلست کرده باره این کار و بیش از فردوسی سر این کار اونم موم هم و دوش و در گمنامی و وقتی مرد به دلیل که یهودی بود و دوره نعزیز میدو رو آمده چیز کرد، کار کار و اعتناری بهش نداشتن باید به هر حال در رایات دولت ایران و از این حرفا انقدر سخت نگرفتن دولت ایران دعوت شرکت ولف آمد در هزار فروسی شرکت کرد و کارش هم ادامه داد بعدها به گزارش خبر دادن که این پیرمرد بیچاره روی زمین نمناکی کشته و تشنه و مریض رو به مرگ گزارش بود قابلی شاید مثلا 10000 تومان من, زافت من اون وقت لیره دو تومان هاند به انگلیسی 2 تومان حواله کرد براش ولی این پولم به درد او نخورد مثل پولی که معروف توی چهار مقاله که برای فیروفزی کرستازن و در... نرسید به اون مرده بود که رسید اون پور هم که رزاشا خرستازه بود دردی از وولف دوا نکرد اتفاقاً دکتر باستانی پاریزی برداشتی چیزی نوشته و بسیار کار بدی کرده برای خاطر این که درست میساها بسیار زیادی از هم دولت هم میشهن ش آاق علف شدن هزاران نفر مقال عمرشون رو شنامه گفتن نون خوردن پسگه چاپ چاپای مختلف شانه رو فروختن ملیونر شدن اوننا رو هیچ کس ندیدید ولی خب یه دوتا هم بالاخره چیزی. دید. حالا ارزکنم که اون همت اون مرد بیچارم در حقیقت خودش رو فدای آیندگان کرده این ارزشش اینه که شما میخواد ببینید که، فلان کلمه در شانم آمدیم نمیشو که از اول تا آخر شانم رو بخونیم آخرش می‌بینیم نایمده که نمیشو که یک کلمه هم که نه این ست تا کلمه رو هزار تا کلمه رو می‌خونیم نایم نایم وولف رو با هم می‌کنیم میگه سیززد افر آمده اولی چه می‌چه، دو قنع شنیم، سر قنع شنیم، این معنی می‌چه اون معنی اینجا برزفی سته ده یکی بعد بعد هایی که در شاهنامه آمده یک شناسنامه بیش از هزار ساله داره اصله اساسی اینه لغت‌هایی که در شاهنامه آمده صرف آمدن اون تو یعنی اینکه که هزار سال بیشتر این از زبان فارسی داره استعمال با و کار محفظان و علماست و این هم اون بیچاره‌ی ولف کرده ما تا الان هنوز هم تا اینجا که من در میزنم خدمت شما تا حالا یه چاپ آنامه که ارده تنها باشه از علمی مکرد برای اول بار یه استادی جلال خالقی مطلق جلال در آلمانه عمرش گرازباد وقت خودش پولم از دولت ایران نگرفته حتی حقوق نگرفته همونجا درست کنده همونجا معلم شده با حقوق ناچیز معلمی در آلمان چهل نسخه شاهناها رو عکس کرده و فیلم گرفته و میشهده این مقابله کرده و دقت کرده و نسخه شاهناها رو تمام کرده و حاضر به چاپ کرده و داده و چاپ داشته میشه دلیمشه. من میشه من شرمم میاد اولا بگم که چند تا چاپ شده از این شاهناهایی زیبایی یه فقط 500 نسکه رابط میگید که خب آنان را خیلی قرمان سه ساله بنده سر کلاسه روزم سر کلاسه شبم دو جلسات سخنانیم هر جلسی گفتم بعد از سه اینم حمتیمون ولی به هر حال این داره چه حالا پول این هم دانشگاه کلمبیا داده اقدار زیادی شو یه درصد مختصمی هم رفته این ها خودشون با خرید این شرکت نمیکنه نمیکنه بعد کنه رو میدیم البته الان جلد ثبامش داره در میاد همون انتشارات و مزدا که عرض کردن داره این درد میاره من نام تلیفون میدم همیشه هم وقتی که دست جمعی برای دوستان کاستیم بهش گفتیم بیچار زحمت کشته اولا تحقیف داده در روید سی درصد که به هیچ دست نمیدار لطه ایچمچه تحقیف در نداره و بعد هم خودش ترسده و بهتر این از که دوستان هر کسی میخواد یکی داوطلب بشه صورت بگیره اسماشونم بگیره پولشم بگیره من تلفان می‌کنم قیمت ستایش چقدر میشه این اولین یا پنجا دلار بود جلد دوخوم دلار بود بزرگتر جلد دوخومت جلد افت صفحاتی سیده جلد چقدره ولی به هر حال جمعش می‌شه هرچی هستی درصد تقریف میده بعدا میفرسته و دیگه دستی نمیشه بهش دلیل اینکه سی درصد داره تقریف میده. زیری ارزاد داره, داره این است که نمیشه؟ ولی به هر حال همه جورا میاد دا. واقعا این چرماغره که جماعاتی دیگرین این این که تا باره اولین وارد داره میشه با این بدبختی به حدثش کنم بیانم بگیرم این پارو این است که خواهش میکنم این رو بگیریم و اسم فرنده می بیسین بعد من میکرسم تلفنشان هم میارم اینجا میدم البته همه دارن اینجا سی نیستش که اینجا پینانی نزید اورنج کانسی در کوستان احساس اصلا آقای جبباری او چیز کرده اون کتاب رو سیرم بگیرید این شاهنامه رو هم خواهش کنم بگیرید این اولین باره که قرار این کتاب در بیاد البته مقص هم نداره یعنی بهترین تا الان و شاهنامه مقص شد. و دو جلدم توضیحات و شرح مشکلات قاعدتی به جلد سه بومش الان داره در میاد من زنگ زدم به خالتی آخری هستدم پاریس از پاریس زنگ زدم بهش هم درد میکرد بعد اون گفت که جل سه بوم براید گفتم نه من که نبودم و نمیدونم ولی دویه جلد سه بومشم درم این از که این یکی بله،, بله،, بله، البته این مطم است یعنی گفته 14 نسخه رو من استفاده کردم برای تهیه این زیادی هم مقالات مختلف می که البته اونها رو باید که وارد بشه که روش کارش چه بوده بود چه بعد هم اگر یکی رو انتخاب کرده تو اگر اون طعظن هر اختیار داشتن هم اون زیر پای صفحه دادی بنابراین شما این نو سره که داشته باشید مثل این که هر 14 نوسته آقای دکتر خالقی رو با هم اینجا داد که اگر یه وقتی البته بیشتر مولا ادمای کارشناس متحد بود که اگه یه وقت با نظرش موافق با اون چیزی در متن بوده موافق نبود نگاه کنه ببینید دیگه چیه و خاص یکی از من که کی... آشی است که اون ازش تومد گیر تومد یا بدون نسخهای یه چیزی نوشنه بردار بعضی جاها بهتار مثلا یه بهتای هست که نی برده تومد ولی نوشی که پلان نسخه این بیت‌ها داره. نسخ داره البته اینا قدیم ترینه و مدارک اسناد زیادی هم داره که حالا جای بحثش خیلی هم دیگیش از کنم که کتاب های متعدده جهات مختلف هر بار چهانا می نوشت شد کتاب ها و مقاله ها مسائل مطاله بسیار زیاد و من اینجا نمی تونم اصلا که اداد کنم فقط بهتون میگم که دوست عزیز ونده آقای ایراج افشار در حدود در حدود 25 سال پیش 25-30 سال پیش 25 سال پیش یک کتابی نوشته و من کتاب شماسی خردو بود براد از کتاب شناسی بیویگفی کتاب شناسی یعنی هم که فرنگیش میشه بیویگفر مراد این بود که تمام نسخه های کامل و ناقص شاهنامان گشت کتابون ها هست معرفی تمام مطالبی که فرنگی ها راجب شاهنامی نوشته بودن معرفی تمام مطالبی که ایرونی ها راجب شاهنامی نوشته بودن معرفی گردم یعنی تا اون روز این کتاب در حدود 245 صفحه. چاپ دومش رو من دیدم. حالا 7-5 سال پیش در مایکیل کانادا دیدم. چاپ دوم کتابشناسی بیروت دیدم کتاب در حدود 600 صفحه شد. فهرست مطالبی که راجع به شاه و تقریباً تمام دوران بعد از انقلاب و همون دیجاشت‌ها باز وارد این کتابشناسی روسی نکرده. یعنی اگر الان یه چاپ سه از هست که روسی بشه خواهد تا دو فهرست مطالبی که درور شامعه نگه البته من نمیگم که همه اینا در درجه که و همه اینا رو باید خوند اصلا کسی نمیتونه بخونه بعد هم بسیاری بسیاریگه رو باطل میکنه بسیارش قدیم نیست از اعتبار افتاده ولی به هر حال اینقدر طرف توجه به این کتاب و این مردم اینقدر را زورش چیز نوشتن چه ایرانی و چه پیدا ایرانی و عرض کردم همین اواخر آقای شعبازی مقاله که نوشتوی که حالا امود پیدا بکنم برای کنید بیارم که خود بکنید تلسیف راجع به تاریخ تولد فیضاستوی چیز پیدا پیده کرد. این مقاله رو اول بار و سال اولی که امریکا در کنگره ازوسی گرفته بودن در لس آنجلس، ایشون اونجا این مقاله رو که سال پیز. تمام این رو پیده سالی شد چون معلوم نبود باهار میگه سی, سی یا به کمتر از مادر بذار هم به شست و پنج آقا در عوام چه شد اسفری شهنامش یازده سال نیگر شد عمر شاهر اسفری. ولی دقیق نبود، دقیق به اسم فردوسی معلوم نبود من اوزم ابحام نیست منصور گفتن، حسن گفتن عبالغاسم کندی است. اون درش ترگیری نیست ولی کندی است. اسم نیست اسم اونیست که موقع تولد میذارن روی بچه و, و این کلماتی کنگه که با آب برای مرد و با عم برای زن شده میشه اسم تشکیباتی سید یعنی آدم رو وقتی رسمی صدا بکنن با کنگه این جاسر عرفات رو یعنی ابو هممار مثلا و اسم رسمی قاعده دیگه هم داره که الان میرسیم وقتش میده کنگهش معلوم اول قاسمی بگن چک ولی اسمش معلوم نبود آقای محیط تبا خود خدا رحمتش کنه مقاله مفصلی تحقیق مفصلی کرده در این باب و باید مقاله او نوشته نوشته که منصور ابن حسن اسمیست اسم اسم منصوره؟ اسمی درشان نوشه اسم. منصور ابن حسن ابن اصحاق ابن شرف شرف مذهب فردوسی معلوم بکشیه است میگه خودشان. امید کتاب هم نوشتن بسیار کتاب هم نوشتن ولی سه نفر از فضلا سه تا مقاله نوشتن هر کدوم یکی از شاخه های تشیع ایجاد کردن فریضه برایم oito اول همه نوشته نوشیه ای زییدی و اقام اقامه کرد قبلا بگم که شیعه دو شاخه بسیار بزرگ داره یکی اولی و مهمترین شیعه دوازده امامی است اصناعشری که دو دوبامی به تعدیق اهمیت و اعتبار شیعه اسماعیلی است یا اف امامی که به که این جزای بحثش میست اینا از مسلمانان حساب نمیده و بهشون میگن ملاحظه دلائلش این است که اینا به معاد جسمانی قائل نیستن و معاد دوزه اصول دینه یعنی های کسی به معالی جسمانی قائل نباشه به مسلمانی قائل نیست به همین دلیل هم مینامونی که مثلا و باقی اعتقادات چون گفر نیرم یکی هم شیعه اسماییلیه یکی هم شیعه زیدیست که بیشتر در یمن اونجا هستن و تفاوتهایی دارن که حالا جای بحثش نمیست ارمون ماهی توا توایی مقاله نمیسته مفصلن و اول و نوشته فردوسی شیعه زید. آقای دکتر زریاب خویی از بزرگترین فضلای عصر حاضر که اون به شم دراز باشه یکی دو سال پیش یه مقاله مختصری در مجله ایران هایمون شکر کردن با توجه به مقدمه شاهنامه فردوسی و این عقیده رو اظهار کردم که به دوتی شیعه اسماعی و یکی از یکی از قرائم اینکار هم گفتم این که اون جلوشو گرفته بود و نجس تویفی که قبل از کنه اون سالونا و خالف پسکرن و اینا هم دلیلش این هم می در همین مجلبه شناسی که ورای بزایی داشت ونده محبت کردن و منشه کردن دوست بسیار عزیز و هم دوره و هم درس من احمد محدبی دامغامی از پذل های درجه اول ب در عربیت و ادبیت آدم از این نظیر مقاله نباشته اونجا و مفصل و مقاله درجه یک به اونجا ثابت کرده است که ف دواز نض 20 و نه اسماسیل برم این است که توجه داشته باشیم که خیلی کار و خیلی مطلب و خیلی ارته عجیب جزیات قضایه‌ای هست که بسیاریش تا همین روز تاریخ بوده، تاریخ هست. اسمش تا, تا سه پیش تاریخ تا 65 تا تاریخ تولدش تا 60 تا 65 نمیدرسن. بنابراین دامنه کار هنوز بازه، بسیار بازه و گفتم ما هنوز یه چاپ درست نکردیم. ان شاء حالا چاپ خالوی تموم بشه برای اولین باری استاد ایرانی الحمدلله بدون مننت کشیدن از دولت ایران. بدون استفاده از پول دولت ایران این کار کرده. و موفق محفظ بشه. یه مقدار کچکی، یه جزء بسیار کچکی از اگر شما بخریدم یه پشتیبانی خیلی خیلی اندک ماهی ناچیزیست از این زحمتی که از این که افلا از از خب از بعد از رهلت رسول اکرم یه اددهی معروف شدن به شیبی و اینا با چیز عبو بایک مخالفت کردن البته گروه خیلی کچکی بودن ظاهرا مخالفت این مطالب مربوط به کار ما نیست حالا تر مشید. ما عرض عرض کنم که یه گروه کوچکی بودن و بعد هم علی ابن ابی طالب قرآن بسیار هست که با اینا کنار اومد و بیعت کرد و بایدن معمولیت بست و کار داشت و کار داشت و مهمتر است همه این که چون حضرت زهرام بعد از 6 ماه بعد از بهلت پیغمبر ایسان هم بهلت پرمودن و حضرت زن نداشتن جوانم بودن زنهای زن های متعدد گرفتن الحمدلله و پسران و دختران متعدد داشتن چهار تا پسر و دختر از بتمه فاطمه داشت حسانت علی حسین بن علی علیه السلام و دو تا دختر حضرت زینب و حضرت ام کلثوم ولی جمع پسران و دختران حضرت 13 تا پسر و 13 تا دختر ولی دخت. ولی ما شاء الله و عباسشو میدونم من الان حضور زند ندارم اما مسئله این است که همه اینا در روزگار بعد از حضرت فاطمه و بعد از حضرت فیرنبر به دنیا آمده خوی این سه تاشون یکی اسمش ابو وکیر ابن یکی اسمش عمر ابن یک یکی اسمش عثمان ابن علیس و چطور میشه آدم اگه اینجوری که ما دربی بیر میکنیم که اینا سایه هم داره با تیر میزدن شما حالا هزار سال دویست ساعت میگذاره حاضرین اسمش که میگذارین اومد؟ دیگه؟ طبیعی یعنی که چطورم امتمندم بسرین وقتی که بچه خودشو اسفر با عمر و عثمان پیداست این اختلاف اگرم میده اختلاف جوزی بود که همه اختلاف های سیاسی که دایتیزمی ها دارد ولی بعد جماعت ایرونی مشاله زار مشاله ارز کنن که اینو گرفتن و کشش دادن و مادر رو کردن درست برای شک قصه های مسلمی برای اینکه حالا این حرفا هم گفید این چیز الان دولتی که آیان روی کاره به وقت ما رو گروه میده از اقابت که شیعه رو یونیا پیدا پیدای کردن ایرونی ها پشتی رو اما و سرزنگرانش هم ایرونی بودن بدون استسنام و الان هم تنها کشور شیعه جهان کشورش بودن اون هسته اون دوره دوره معمول بوده و آزادتکی بوده و نا. چیز می‌دن می‌تونستن بیان بکنن موظاهمشنان زیاد نمیشودن، ایشون می‌دن به از خواب دشتن و زید دشتن و کردن و بحث‌هایی کردن بله می‌عنی ایشون از همه داناتر یا لاعقل اگر بدین که علم امام الهی و از جانب خداست ایشون فرصت نشد علم علمو بیش از به همین دلیلن مذهب سیده‌ای اصناع شریف محروف به است برحا بگذاریم از این مسائلی مسئله مهم مسئله امام آخری است امام دوازدهم هم که تکلیب است تا همین زیده داره وقفاته بود تولیب فرسی است تکلیب معلوم نبود نه چرا دیگه معلوم کردن حالا دیگه حضرت هستن و قائبن و تشمیرن ولی نه اون بقیه حتی تا این حد هم معلوم نبودی و هیچ کدوم از تاریخانشون نمیدادن که آنسا نسکری فرزند مرینه ای بشنشون برادر ایشون جعفر آمد نماز بخونه به جنازه برادرش وقتی خوی زادن یه مشتی ایرونی ها کنار آبا باری کنار آقا میخواد نماز آقا که میگون آقا آقا پسرشون خب یه بخونه گفت من تو نبینی ایشون حلال <تصفيق> صدیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زدن مرکر کنار سیاش کردن اسمش شد جعفر کزداب و الان در کتابهای تاریخ احل سنتی نمیتون جعفر سانی جعفر ابن علی امام علی النبی یه پسرش جعفر بود پسرش هم حسن امام حسن امام شد جعفرم بود اما حسن, حسن بچه نرینه نداشت بچه رو براش تراشیدن و ترتیب دادن و اصلاً به قیبت برستادن و قیبت سغراه و قیبت کهره و همه این هربا و حقیقتش خدای تعالی بگونه و برای اینکه تصور نفرمایی که بند کف میگم نوز بالله که کف بگم باید عرض بکنم که از هر ده تا مسلمانی در این دنیا نه نفرشون به مذهبی هستن که بشه میگن سننی، البته سننیش هم شاخه های مزهد بگید ولی حدود تعداد جمعیتش یه سنونی نسبتش یک به ده و معنیش این که هر ده مسلمانی که توی این دنیا هست نه داشت اصلا به اصل امامت قائل نیست نه این که به آن زمان قائل نباشه. اصلا اصل امامت قبول نداره میگی این که پیغمبر جامشین از طرف خدا تعیین شده داشته باشه قبول ندارم من این دلیم اولای که امر انتخاب دارم البته خاندان رسالت کمال احترام بشون دارن احترام که به علی بن ابی طالب بیزنن بیش از اونیست که ما میسه به همه خاندان پیغمبر تا هر وقت کمال احترام دارن اما معمولیت الهی برای اداره دین و اداره دنیا وظیفه امام هر دوست پیاست دیدی و دنیاوی دارن اینو قایل میسه دوتا اصله که بشنگن اصول مذهب خود از حدیثه یکی امامت که از دنیا اصلا امامت قبول نداره بنابراین بنده اگر بگم که تو جمهوری اسلامی بشه از وقتی که به من گوش ولی این جزء مسائلی است که هیچ ارتباطی با اصول اعتقادات نداره مثل منکس بدن معادی جسمانی نیست که بعد به کلی خارج از دین بشه امامت رو قبول ندارم یکی هم عدله عدل رو هم ما تومد دبستان و می گفتن خدا عادل است و ظالم نیست پس این که اگه بگیم که خدا عادل نیست یعنی خدا ظالم هست از الله که معتقدی به عد سن می که این دنیا جای سنجیدن عدل خدا نیست عدل خدا رو خودست و خودش باید بسنجید با ما هرچه می کنه او خالق ماست ما بنده اوی ما گوزفند خریدیم سرشون خواهد بود، تابلو نعکاشی کشکیم این آقای طایلی ای یه واقع قلم رو برنده میچو اه نکن آقا این خوبه میده به تو چون هر بکنم بایم کشکن کدام با تو بکنم نمیشو بکنیم ظلم کردی بریم نخواست که خدا علاله خلق و بلعم خلق و عم دست قیاس بنابراین اصلا صحبت عد در مورد یعنی با با با میزان و با عینک و با مریارای محدوب صحبت عدیزه از انه برای خالق این که است بعد این پیش میاد که چرا, چرا به من پلان چیزی نهیدی چرا به اون بدی؟ بار خدا یا اگر ضرور خدایی تینت انسان همه جمین سرشدی قلعت رومی و تهره عبشی را مایه خوبی چه بود و علت زشد از چه سعی دوست و از چه شقیش شد ظاهد مهرابی و تیشی شکن اشته نعمت من ام چرا افت دریا دریا مهنت من افلک چرا افت کشیده شد؟ نه کنش. و این درست نیست اگر فکر میکنی خالق موجودیش که اصلا در ذهن من نمیتونه بگن جاست نمیتونه چطور ممکن است از زمان و پیش از مکان حدودی باشد چون ذهن ما چیزی رو پیش از زمان و پیش از مکان بدونه باید زمان و بدون مکان اصلا درک می کنید و چطور استفاده این ما می بنابراین این سه عدل و قبول نداری کسی سی من نیست که خدا هست از فکر می ظالمی ابدا در صورت این دو تا افیل و سی است. و امامت هم همینطور بنابراین امام زمنان تابه اون هست که ام تهدید شد، تری کردم، شوکه کردم، ان شاءالله تلیف به ایمان آدم داره. جان بد. پولر حالین هست که من نیچی، اینه که اگر اگر این شاهنامه نبود، چطور میشون؟ سنوری مدیعتم های نبود، چطور یک؟ دوم، اینکه حالا بعد اینکه جواب اون سوال دونستیم که احتمالا اگر شاهنامه نبود شد، ما امرود فارسی حرف نمیزدیم یا، یا یا هر هر چه هست بعد سوال دوبا مطمئن شد، اونیه که تو این کتاب، این گندگی، چیشی نوشته؟ اینو شما در زرف در, در پنج جمله، ده جمله، شش جمله، هشت جمله میتونیم بگیم که تو این شامانا بالاخره چیان چیشی نوشته شده؟ اقلا یه جوره، سه جوره، پنج جوره، قسمتها داره، نداره، ارتباط با هم داره، نداره، مطالبش از چه نوع هست؟ اینم، این اینم با است که کسی جواب نمیتونه این دوتا سوال، این دوتا توی این مقاله جواب داده شده من گذاشتم حالا که بعد دوستان اکثیر کنن تا حالا کتاب رسید یا نرسید دیگه یا گرفتن یا نگرفتن دیگه اونها مسائل سانویست و به خود دوستان نهر بشن اینجا چند صحبت قردوسی شد، صحبت مدایه ویسره شد الان من یکی اینا میخونم، البته آه ترین شعر دو سیرو بعد بگم که عرض کردم که ستایش اگر اثر اعتقاد باشه به دل آدم می نشینه و آدم با شوق و می خونه اما ما تمام شاعرای ایران دو تا شاعر از همه شاعرای دیگه بیشتر مورد ستایش قرار گرفته یکی رودکیز یکی هم فردوس البته بسیار شوارای دیگر هم مورد ستایش بودن توجهشون شده مثلا حافظ رو بسیار کسی هم ستایش سلام. کردن سلام و, و دیگران دیگران اما بیش از همه فردوسی مورد ستایش قرار از قدیم الایام تا الان نظامی وقتی میمده فردوسی رو عزت میشه سعدی و خیمده فردوسی رو بهش اترام زشتید دیگران دیگران همینطور تا روزگار ما که دیگر اصلا بی حد و و بعد هم این این خوب دلیل داره یکی از دلایلش همین اهمیات این کتا آدمی دید. که در حقیقت رو دکی شعر فارسی رو روی که بعد این پناه استوار نظم روی او قرار گرفت اصلا. قبل از رودکی شعرهایی بودن، ولی هیچ کدوم طوری نبودند که بتونن یه سنت قابل فیروی درست بکنن و در روزگار خودش گفتن استاد شاعران جهان کسایه مروزی رودکی در سال 329 مرده سال 329 خیلی سال مهمه روزاکی در سال مورد مرده احتمالاً رو فردوسی در همون سال 329 یا 3330 به دنیا آمده و قیبت صغرای حضرت صاحب الامرم در سال 329 تبدیل شد به قیبت سال غیبت کبره و سال فنیز، سال, سال چیست؟ سال تعلیف کتاب کافی محمد عبود بله ارز کنم که کسایی مروزی سی و یک به دنیا آمدید یعنی چند سال بعد میشه توازه است. به سی که و چهلو سال چهارشنبه و دو روز باقی از شببال بیا آمدن به جهان تا چه گویم و چه کنم سروت گویم و شهادی کنم به نعمت ما. این آدم که 11 سال بعد از مرگ رودکی دون را اومده میگه رودکی استاد شاعران جهان بود صد یک عزبه توی چه سایی گرگست، گرگست یعنی هرگست و همینطور دیگران خیلی، خیلی زیاد، خیلی زیاد به رودکی شعر گفته شده و ستایش شده همه ستایش کردن، شعر تضمین کردن، آوردن بعد از رودکی هم، فردوسید و به هر بزرگ روزگار ما، سه تا قصیده در مدفه روزیده ارز کنم که قصیده ها یکی از یکی زیبا تر، البته و همین با اون قصیده های اون زیبایی، نیگوید که ما همه گفته این، ولی حسین مسروف از همه بهتر گفتن و من یه ای از فرین فردوسی رو که مسرور گفته، اینجا آوردم حسین مسرور رو به احتمالاً بچه‌های قبل از انقلاب بشناسند داستانم می‌نوشت تو اطلاعات در نفر قزل باش و تو شاعر بود و اینم شاعر عجیبی بود شاعری بود که ازش قزل اینا اینا هیش جز موضوعات ملی این که من هیچ اعتقاد ندارم بگن که این شاعر چون نوپرداز نیست این تقلید از گذشتگان همشون یکی هن همه میشینن قافی رد، نه؟ حسین مسئول شاعر دریجه یک قضا نمتوس بسیده شد شعرها اگر مفهوم ملی و سیاسی و اجتماعی داشت به بهترین صورتی حالا فیدوسی میخونه یه قصیده داره در زم تریا چیست یا رب این به زهرا و به تقم کوچنار اصلا آیت فصاحته ولی یه دونه فصاحت از در دست سمون ترسی این حسین مسرور یه شعری گفته است در همون سال که 1313 که برای اولین بار هزارای فردوسی رو گرفتن و من آوردم اینجا یه تیکشو میخونم براتون که یه ذره کیف کنیم بعد بریم سراغ کاره اونجا قسمتی از این مدایه هم البته آوردم که کیا گفتن چه کردن چه کردن، ولی شعر مسرور یه قسمتیش البته اینه میگه سرگه که اندیشه بیدار بود ز زالاویش تن سبکبار بود به نظاره جلبه ما تا در دیدگان بست بر روی خواب یعنی اندیشه در روی خواب برا سوده گیتیز غوغا روز همه خفته جز فکر گیتیز و روز کنار خط کهکشان روی ماه درخشنده چون شاخ در آن دل اندیشه توست داشت به سخن عظم پابوست داشت به گفتم دلا ره دراز از تو دو, دو. بگفتا نبا سرعت سیر نوم بگفتم چه آری مرا ارمغان بگفتا دم گرم و طب ارغان ز گردی که از آن خاکدان آورم تراب سرمه چشم جان آورم از آن برق رخشنده جان پروز تراب هر توی آرم آفا سوز و از آن آب حیبان که در جام اوست ز آقشور سرمدی نام اوست تو ها جرعی آقارم خوشگوان خوردی نفر ساید بر آمد دل از سینم شتابان چو اندیشه راهوان ز مرق سهر بالو پر وان همه راه را تای به یک گام کرد چون دل دیده بر پاک اون چنین گفت با قربت پاک او با می میزمان میماند کجاست؟ زمین نام بلنداخ ماند کجاست؟ مبادا ما کنید دست زحمت دراز بدین سر که از شدی شدید سرفراز برودند به نفشه به فیرامنش به گل قرقه کن فر تا دامنش به جشن هزارش هزاران هزار بیا برز خونیاگران بهار که بر یاد او چادمانی کنم برخصند و شهنام کنم تو ای ابر فرخونده جالبا خرامانده شو تا در زهر برگ گل قطره ای بام کن به سیما جام کن هران کس که آویاد به دونجهش نگاه فروشون از چهرهش گرد را. کجا آق ای؟ ای بلند آف دار. برون آو یا بر فرق گردون به من در خورت توست روی زمین زجا خیز و بر چشم دبران نشین بیا و تو زشهنامه گیتی پرابازه هست زشهنامه گیتی پرابازه است جهان را پوهن کرد و خود تازه است تو گفتینی جهان کردم چون بهشت از این بیش تخم سخن کس نکشت خیز و بنگر که تخم پاک چه گلها دمیده است بر تر بخاب نه آن گل که در مهرگان پج مرد نه خندیده بر شاخ بادش برد نه جور خزان دیده گلزار او نه بر دست گلچین شده خار او بزرگان پیشینه بی ز تو زنده شد نام دیری تو در جام جمشید کردی شراب تو بر تخت کابوس بستی اقاب اگر کاب آهن یکی توده بود جهانش به سوحان خود سوده بود تو آب ابد دادی آن نام را زدودی از او زنگ ایام را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 زدن سردی شام پتخلفتو بی بیافسرد آن آتشنگیز رو برآورد تازی زبان دست دهان بست بر فارسی بوی شهر به هنگام سامانیان بزرگ آن شد که بگریزد ریزد از گله گرد دیگر باره این آسمان کبور در ترک تازی بر ایران گشود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 که فرمود در نامه خویشن ولی شاعری بود صاحب قبول زمنوه صاحب قراران عصرید نه تحقیق گفت و نبند و نه, نه بعد که هر ندانست از آن به ده بیت صد بدره و برده یافت از یک عطع اندوستان اونسوری شنیدم که از سیم زد دیگدان، زر ساخت آلاق خان امزوری منونش از اون سیم و زر سود نیست از آن دیگدانش به جز دود نیست تو را گیتی از شاعران برگزید زبان تو شد گنج حق را کلید نمودی به دوران خیش به باب خود و لبمه نان خیش بالا بود چون تو گوینده را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 نمایی به ایرانی جان نیاکان کوشنده پهلوان مگر پر پیشینه یاد آورند، گذر بر ره پیشداد آورند زبان کوهنگشته پهلوی کنی تازه چون عهد که بدین آرمان رنج بردی بسی، بیابد چو کوشنده باشد کسی بر افراختی غامت رستمی نشان دادی از همت آدمی سخن پرچم پردرخشت تو بود قلم تیغ و اندیشه رخ رخشت تو بود تویی دومین بومینکاوه روزگاه درخش تو شهنامه نامدار گروه اهزه خاک را پاره کرد پی تازی از کشور آواره کرد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 تنتگرز پیری گرانخیز بود دماغ جوان انگیز بود زجا خیز و بنگرد که در خاک طوس بدست زمین نیست بی جای بود اگر بیمت از تحنه اونسوریست زمانه نشسته پی داوریست چه ترسی که میمندی زنده است هزاران چو میمندیت بنده اگر شاهت از پیل خود بیم داد وزیر دقل جای زر سیم داد چو تو بیده غفراشتی برگوار چو محمود را مات کردی هزار گرت بستن بند تو سارزوست خراسان نام تو پر آوروست بر آمد یکی نعره از غعر خاک نه از خاک از آن مرقد تابنا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 دعای تو بر هر چهارت شتا من آمین کنم تا شود مستجا چون مجده قیبم آمد به گوش ز شاه سخن یاز بر رخ زروش بر سوی دادار دست که ای آفریننده هرچه چه هست نگه دار اورنگ جمشید را قوی پنجه کن شیر و خورشید را به ایران فروب کهان تازه کن جهان را از نامش برا کن البته این دنباله هم داره ولی خب اینجا واقش من کردن. بعد کردن موقعش بعد ستایش رضاشا از 2000 برد 2000 از این عطا از بهترین ستایش نامه های که شده و خواستم که ببینید فیز نام ارزم کنم که این که این شخص، این, این همه شاعر، اینقدر مورد ستاش خورده این یه سردی داره دیگه یه حسابی داره و راجع به این که کتابش هم چه حالی داره و چه رزید داره واسه همین مطلبی ارز کنم که هیچ لزومی نداره ما دلائلی خیلی علمایی یه که یه این عدویت بگیم، فلسفه بگیم، نرم استعداله‌های عجیب غریب کنیم خیرها. این شاهنما کتاب خیلی، بزرگی، شهست هزار بید. که چاپ نبوده که... این چیستن می‌نوشتن؟ نوشتن این دو سال مثلا خدا بیا مرزه مرمان جواد چریفی کبیر که چاپ زیر نظر بنده چاپ رو بنده چاپی رو بنده نگاه میکرده هفت سال جواد شریفیم شاهانه و انگلی که بیر خب این بشه ماز این دستماز میخواسته، اون کاتر نم میخواسته زن و بچه داشته از این رو نوم میخورده بعد مبلکت ما هم که شروع بلو بوده نمیدونم عوضه حوض میشده هر روز آسای شاهر آمش نبوده یک کسی دستور میداده بعد میمرده یا برمیش گسته یا بعضی بوده عزلش میکردم مالشون می گرفتن هزار مانع بوده برای نوشتن کتاب این بزرگ. بعد هم که نوشتهش تو قبل بهم میرفته. با تمام این احوال و تمام این پیش از 500 نسخه شاهنامه کامل دست نویس، که از اول تا آخرش هست برده است. بیش از 500 نصد فقط در کتابخونه‌های عمومی هست یعنی کتابخونه‌هایی که شاهنمایشون رو فهرست کردن، فهرستش چاپ شده ما دیدیم بله در دست اشخاص، در کتابخونه‌هایی که فهرست نشده در دوشور کنارم چقدر هست، خدا می‌دونه بعد ناقصه و نرن بخواد به حساب گرید که لا تا عدد و, عد و ولا تو سه هزار تا این کتاب، این گندهی، این همه مدت نوشته در این کار آسمون که نبوده این مال اون وقتش اما بعضی که چاپ شروع شد هیچ سالی نیست که شاهنامه دو بار، سه بار، یه بار، دو بار چپ نشه از روزی که چاپ شروع شد داره الان اینجا هم این کتاب فروش که ما رفتیم هنگی جور چاپش آنه من همونجا این اگه نه چاپ نمیکنن که مردم می‌خرم پس معلوم میشه که میخوان که میخرن. حالا بفهمن، نفهمن یه خودلاشو بفهمن اصلا هیچ نه، من. من نمیدونم ولی کتاب حماسه شماره دو گرش آسنامه‌ی اسدی پنجه سال از فردوسی هم ساخته شد شاهرش هم همشهری فردوسی هم. استادم بوده، هیچ حرف در استادیش نیست گرشاسومه هسدی دو بار تا حالا چاپ شده فقط، یه بار در سال 1314 اونم به خرج رزاد فرهنگ مرحوم حبیب یک ماهی چاپ کرد این نسخهش تا این اواخه تو بازار بود یه بارم دو سال پیش دو بود چاپ بود هفتش هم بیشتر نیست شاهنومه شست هزار هست سالی چند دفعه چاپ میشه یه عشق رسنامه از بعد به اختلاع صحنت چابتاره دو دفت چابت شد یعنی چی؟ یعنی ما حال تازه این چه؟ دوست دیگه باقی دیگه شو فکرش رو بکنیم و عجبتر اینه حال تا وقتی فردوسی اینو نساخته بود می گفتیم که خب شوهرها سرمشق نداشتن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 حوادث, حوادث به, خود، به خیال فردوسی تاریخی که بیشترش پهلوانی است یه قسمت چون تاریخی است البته که بحث میکنیم یه تیکه تنمیم یک صفحان شامان تاریخی ولی قسمت بیشترش هماسه است و هماسه میدون جنگ و عرض نمی رو زد و خورده و اگر مطالب دیگری هم هست اگر از یه عشق چیزی صحبت میشهد باز برای اینکه که پهلوان به وجود بیاد و بیاد میدون بس این دارم تهمینه که عاشق رستم و چه بچه تا است که این وچه زایده بشه دیگه بعد مادر اصلا میره کنار بکنی یاش ایش خواهنه تمام میشه هم این موضوع بسیار محدود رو شهر دربار پادشاه شرح میدون جنگ یا مقدمات میدون جنگ و احیالا مزاکرات سیاسی و همثال اینا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 مرشدی بود، انشالله که زنده باشه، کتیرهایی تو نزاوات توی قربخونه نقل میگفت اون تازه میگفت که میگم خیلی هم نقاله همچین بروت زبونداری نبود میگفت من نمیدونم چه سری تو این کلام حکیمه به محض اینکه من سلام بلرم میشه میگن تلویزیونه بگرد تلویزیونم اون روزگار ما، اون برمه که داشته با اون بساعت مردم افوان بقال و چخال و عربساز نمیم و مردم بزرگتران که ملازه این به این ترتیب جز داشتن نبوخ یه چیز بی همتاق و یگانه نمیشه باشه برای این که این چانمه رو انشالله اگر اونس گرفتید باش و اگر اولفت گرفتید و اگر شروع کردید به خوندن و اگر آشنا شدید کمی که بتونید خودتون دست بخونید میبینید که نه هم ملول نمیشودم اصلا سیمونی نداره از زمین نمیتونه بگذاره از بس کشمده است از بس جواله. و عرض کنم یک هست و سر و همینه البته دلایل متعدد داره که من حالا فعلا روی اون دلایل متعدد الان نمیرم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 مراسله رو نمی غزنگیسی روش نامه قلحت نیست ولی نامه یعنی چیزی نوشتیم و باشو بازن به همین دلیل از قدیم قابوس نامه داشتیم نمیم سیاست نامه داشتیم به همثال اینا حالا مجله در میاد ایران نامه یعنی کتاب محروف به ایران. کتاب هم همینطور کتاب هم به معنی نامه هست و مراسله هم به معنی نوشته بود. برای نامه یعنی نوشته کتاب میمونه شاه شاه چنان که میگیم دید صفته اول اسم نیست اسم اونه که بابا ننه یادم اسم بچهشو بذاره بذاره هیچ که از اسم بچهش نمیداره شاه و آدمی هست، اسم می داره بعد این شاه میشه جا از شاهی میافته این صفتی. بسیاری از صفات هستن در زبان فارسی که به جای اسم به کار می‌رن مثل استاد، مثل معلم، مثل بقال مثل همه چیزایی که شغل و دلالت به همه صفته ولی جای اسم به کار می‌ردی که یعنی بقاله گفت که نمی‌دارم صفت به جای اسم شاه هم به جای اون اسم و اون شخصی که متصدی اون مقام هست می کار ولی این تنها نیست آخه شاه به صورت قید در حقیقت قید تحسین قید قید مبالغه در بلندی و بالایی میاد برای هر چیزی شاهکار شاه شاهراه شاه راه اون مفهوم شاه به اون معنی که یه وظیفهی داشته میشه یه اداره یه مسئولیت میدشه کاری میکنه هستم نیست به معنی نوع برجسته از هر چیزو کلمه شاه براشتو کار کنه دردان به معنی شاه هم هست. حالا، شاهنامه هر دوی اینا رو میشوندی که یکی گفت که نامه شاه کدوم شاه؟ جنس شاه ام شاهان دلیلش هم این بوده که میدونید که قرنهای متوالی هزارها، ها رژیمی که تنها رژیمی که در دنیا وجود داشته سلطنت بوده که از همون یه دست جایت کچولو و قبلیه های شروع شده تا تا اسیسی دولت و کش رو کشور از این یه نفر سرپرست شده و اون سرپرست به عنوان حالا الان مد شده به خصوص بعضی که افکار سوسیالیستی اینا هستش بوده که اینا نمجبباران هم احوال اینا رو میگن مردم کار ندارن نمیم چیز ندارن ولی روز اول این که نبوده این به عنوان اون ملت و اون جمعیت و اون مردم این شاه شناخته می شده و احوال شاه رو که می گفتن در احوال کل اون مردمه که می گفتن با به هر حال تاریخ تبری مثلا تبری مولا بوده آخون بوده اصلا درباری هم نبوده کتابش نمیشه تاریخ رسول ول الملوک قبل از تاریخ پیغمبران و پادشاهان تاریخ پاچهان، تاریخ جامعه بوده حالا البته این کسی گرد پیشینه و شهر عقالیز یک پاسچایی نمیسه اون ملت و این افکار امروز، این درست نیست ولی درست با این افکار امروز داوری کردن درباره اثر هزار سال پیش هم درست نیست اخ اون ذهن و اون فکر و اون زندگی و ما ما هیچ خودم جزیات اون زندگی رو به تصبرمونم نمیاد اگر یک از ده هزار گوشش توی یه کتاب چیزی نوشته دوشید شما الان این انقلاب اسلامی بودین همه در تایید عمرتون ات... چقدر خود این اصلا شما ها دیدین؟ دیدین اصلا اولا ندیدین همه گوشه بسیار چند تاریخ، بسیاری از سحنه هاش از یه نفر بیشتر شاهد نبود باقی بعد هم الان حالا همون هم که دیدین بخوام بگم بگیم منتونید بگید ما چطور ما میتونیم وضع اجتماع دوره فردوسی دوره حافظ دوره سعدی و امثال داوری کنیم و بعداً بگیم که ولی این غلط کرده اونجوری. این درست نیست به در هر جهت یا نامه شاهان مراد یا اینکه اصلا شاهنامه نیسای یعنی شاه که تافا یعنی بهترین کتابه همین که شاه میوه یعنی بهترین میوه ها شاهنامه نامه بهترین نام ها و بهترین این معنی رو هم نیکنه داشته بار اول ارز کنم که این بار اول اسمش خدای نامه بود خدای نامک در فهله بود و خدا و خداوند برنی صاحب و مالک اصلا اون خدا هم که میگن خدا یعنی اون مالک تام عالم، خالت تام عالم من رختم و فرزند من آمد خلاف و ست او را به خدا و به خداوند سپردن یعنی عربا خودها های نامه که فهلوی رو وقتی خواستن به فارسی ترجمه کنن به فارسی و عربی هر دو یعنی اول که به عربی بعد دیدن که چون خدا رو در فارسی بره پروردگار گذاشتن دیگه صورتی نداره که او همون رو برای ساخت بزنن. خداهای نامر رو دیگه نمیست بذارن در عربی ترجمه کردن سیرال ملوک و این رو هم یه ایرونی تبا تباییه پدر ایرونی مادر که در سن سی و چند سالگی سرش هم از بابات ممریکلش از دستاد یعنی عبدالله بن مغفق روزبه صدرالدات به, به پارسی این کدا رنامج رو از پهلوی ترجمه کرد به عربی به نام سیر الملوج و کمی بمانی نمون متاسفانه از بین رفت ولی قسمت هاش در کتاب‌های ادب هست بعد هم اول بار جامعوری این داستان ها و به صورت کتبی در آمدنش از صورت شفاهی در سال 346 اتفاق افته گفتن فبروزی در حال در سال 329 یا 323 دنیا آمده یعنی سالش بوده که برای اول بار این, این داستان ها از شفاهی به صورت کتبی نراج شده و قصه عبارت از این بوده که یه مدتی قبل باز, باز پیوند میخوره با رودکی رودکی رو امیر نصر سامانی دستور میده که کلیل نه رو که وزیر امیر نصر فارسی ترجمه کرده بوده رودکی منظوم بکنه رودکی همین این کارو میکنه به پیوست یا خودت رو نمیخوای خودت بس. به پیواست، او یا پرآورنده را بویای به بسوفتیم چنین دور را آکنده. این ترجمه، این منظوم شدن کهیده بوده نه از حوادث بسیار بسیار عظیم تاریخ ادب ایران. یکی از حوادثی سر ریشه تمام حوادث ادبی دیگه. اولاً، هیچ کتابی، هیچ قصه‌ای، هیچ کتاب تاریخی، هیچ کتاب هماسه‌ای نیست که از این کار تعلیف شده باشه و از اهمیت این، این داستان نقل نکرده باشه از جمله در شانان فردوسی فردوسی به بحانه این که در روزکار انوشیروان کلیده از هند آوردن به ایران داستان کش میده تا اینجایی که بوده که اینش دلیلش این بود این کتاب به اندازه توفیق پیدا کرد. اولا که به روایتی ده هزار دینار و به روایتی هشتاد هزار درهم اوندکی سله گرد و برای اینکه درست بفهمید که ده هزار دینار چقدر بنده عرض میکنم که هر دینار یه مسخال تلاست یک مسخال طلا معادل 5 گرمه یا اونجوری میخواید اصاب کنید اونجوری یا اینکه یک من و چل مسخال ده من میشه چیزدار چارسد مسخال ده هزار مسخال گیره این در حده نزدیک 50 پنجاه طلا به روایت دیگه گفتن که چهل هزار درهم خود امیرنس داد چل هزار درهم هم سرشکم کرد که امیرانش بدم درهم هم یک مثقال نقره است بنابراین پنج گرم نقره اگه بگیرید میشه هزار گران این چارست یه خربار رو یک سکمه خربار کتاب رو هم حدس میزنن که در حدود سه هزار بگیر. این حادثه و استاد من محروم بعد یه زمان فروزانفر در وقتی که شاید سی سالش هم نبوده کتابی نوشته به نام سخن و سخنبران و اونجا به این حادثه که اشاره میکنه به حادثه کار رودکی نوشته که ظاهرا این کتاب سیزار فرید بوده و بعد در هاشیه میگویسه با استناد این شعر فردوسی قردوسی میگه زعبیاد برای شاهنامه خودش میگه زعبیاد قرار دور از سی هزار شایسته غمگسار اگر بازجوی از او بیت بعد همانا که کم باشد از پانسد نبی نتسی نامه پارسی نوشته و عبیاد 100 بارسی صد بارسی 3000 بار تا فردوسی میگه نامه پارسی سهزار بیتی بیشتر میست و این اشاره است به طیب که که ترین نامه اون روزگاه است. و این شهرت فوق ای که این پیدا میکنه کنه میشه که کلیله به قول مقدمه شاهنامه عبو منصوری که ازش حرف میزنی میگه کلیله در زبان خورد بزرگ افتاد و نام او بدن زنده نام امیر راست. یک چنین انعام و اکرامی البته شاعر صاحبتر به صاحب تخند رو بر سر شوق هم میاره که بنشینه به کار مهم میبونه کاری به مراتب مهمتر از کاری دلی. و فردوسی یه جمعی میگه میگه من نشستم این کار کردم همه این کار رو کردم که تا روز پیری مرا بردهد ذر و گنج و دینار و افسر دهد هم حیثیت میخواسته هم هم از گشت بگی بمیره این که دیگه مشروع ترین خواسته ی که سن هشتاد سالگی بگه من دیزم ندارم دیزوم من وقتی 15 سالم بود دیزم خهربار سه تومم من هم دیزم ندجاری خوشت اگه نه دیزم عادی خهربارش دوتومم دو حالا روزگار فردوسی هزار سال پیش از اون میگه جو و گرمه و هیزم ندارم اون زمستان سگ گراسون که سنگ که نماندم نمکسود و هیزم نه جو نمکسود گوشتی بوده که گرمه میکردن نمیدونم دوستان چند تاشون گرمه رو چیه چند تاشون در ایران به خصوص هنوزم در نواحی روستایی این کار میکنن ولی مرسوم بوده که پاییز روفند و پربار میکرد کااملا چاق چاق می شد بد سرش میبریدن تو دمبه خودش سرخ میکردن گوشش با نمک رسی و استخنش عمل سبک با نمک بسیار دنبه سرخ می کردنن میریختن پو کم ب میذاشتن و, و زمستون خرد خورد اینا می و کرش درست میکردن آبگوش درست میکردن پس درست من یادم بچگی در دوره پهلوی اول اوایر دوره فهلاوی اول سال‌های عزاست که در یکی از چیزایی هم داشتم قرمه بود مشتاقم احمدی بود این قرمه دارد میز و بود اون بر گنکدار بود اونم قرمه داشت می‌باریدم با کار و یکی که چه سیرا قرمه بده این دو سیوینیم می می‌کردم. این روش میگن نمکسود در ظنم بگم که این صنعت رو سربازان جنگ های سلیبی، سربازان اروپایی که به جنگ های سلیبی آماده از مسلمین یاد گرفتند و آمد شد صنعت کالبستازی فعلی با،, با این آداب و ترتیب این صورت یافته همون صنعت کنسر کردن گوشت. که هنوز هنوزم به صورت های نسبتاً ابتدایش در الجزائر اینجا ها هست و به اون آدم کنسپساز میگن جزدار با زفت جزدار یعنی کسی کارش هم کنسرت کردن گوشته و بعد که آمد دیگه چیز کردن رو خیلی خیلی این ها تغییرات دادن و تغییرشک شکل دادن و کارهای مهم کردن ولی اصلش از اونجا اون وقت بعد به صورت پلباسی که در روسیه و هرگشت مهمت باز دست ما از اون طرف کلمه کالباس روسیه میگه نماندم نمکسود و هیزام نجو نچیزی پدیده است تا جو درو جو درو اول, اول, اول این ای که عمل میاد جوه سبتر استم نماندم نمکسود و هیزم نجو نشیزی پدیده از تا جمه درو دو دست و دو پای من آهو گره آهو یعنی ای یکی از معانی آهو آهو یعنی ناخود یعنی ای این غیر از اون آهوی هیمون بسنویشتشون با هم فرد دو دست و دو پای من آهو گرفت توهید دستی و سال نیرو گره الا ای باورده چرخ بلند به پیری چه داوری مرا خستمه چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بزاشتی مرا کاش هرگز نه پروردی چه پرورده بودی نیازو بودی تو نمیخواستن گشت میدیم که یه آدمی با اون شعن و شوقت و با اون شعر و با اون تاب تبلیش که میخواستی که سر تو خواهش گوهر بگیرن انا با تاهم این احوال اون قصده ای که کله ی 99 درصد از جماعت مردم ما هست که صرفتا معمود قرار گدشت و با فردوسی و که بیاد هریه به ایج که میسازه یک دینار طلابی گیره و تازه چیزی قابلی نبود در برای اون که رو دکید چیزی قابلی هم نبود یه دینار رو طلاب میگیر و بعد نقره دادن و بعد همچی شد و که که در روزه 150 سال بعد از مرگ فردوسی این رو نوشتن تا چهار مقاله چهار مقاله قدیمترین کتاب 20 گیراجر فردوسی حرف زده 150 سال بعد از فردوسی این افثانه رو نوشتن داره میخواستن چیز کنن و بعد نقره دادن نغره طلا و دوسی قبول نکرد و برداد به و داد به همومی و نسیداد به همومی و نسید پول آوجود و دفتید در رفتید اینه شیر رو برد اصلا چین چیزی وجود خارجی از اجتبالات دلیلش هم خیلی ساده است شانه برم سلطان محمود و این نیست خیلی خود سلطان محمود در 421 و یک مرده در سی و هشتاد و هفتم، خراسان در سال سی و هشتاد و هفت سلطان محمود ساله رو خراسان حالا همون سال اول هم که نمه همین فردوسی قرار میزید شاید این مدتی هم بوده بعد، به بول آقا قرار باشد. در سال سی و ۲۲ سال بوده که چانامه شو داشته میساخته و سه سال بعد، از در سه سال بعد از سپس سال محمود چمانه تمام میشه، شود 25 سال بعد یه ده سال دیگه صرف روتوش کردن و ادیت کردن و افسودن مقدمه و سایر مسائل و مقدمات دا داستان و ترتیب دادن این به صورت کتاب نکنه محمود کجا بودی؟ اون وقتی که ایشون مخاصشان ها بسیدوش قرار گذاشته 22 سال بوده، فردوسی، فردوسی علت اینکه این کار کرده این که در دوره سامانی یک چنین نواخ و انعامی رو دیده فکر کرده خب منم کار ماهیم تر این رو بکنم همه زندگی شد، مادی و معنویرم رو این کار ملک و آب و بساط و زندگی و 35 سال عمر و جوانی و چقدر بدون دنبال این مقاله و قصه گویی رفته چه گدی بر شاورد شراب و کباب بهشون داده و مننتشون کشیده و نازشون کشیده و آورده چی چون کاری تا یه ازشون میگیره و بعدا به کار هم نرسیده دوستاییو بردن و خوردن همه چی مایوسش کردن بعد تو که موقع پیرید هیچ شفا این فکر کرده بوده که من شاهنامه رو وقتی تمام کنم دولت سامانی که باز من از برخم استاد خودم مرحوم جلالدین حمایی شنیدن که فرمود که هر کار بزرگی در ایران اتفاق افتاده پایش در محمود که توی بازار فروخته بودن به بنده بی سوکتکین رو و خریدارش هم تازه بنده ترک دیگه سامانیان رو نام هلتکین و پسر محمود سلطان مسعود هنوز تو تاریخ به یعقیه هست که وقتی میخواست حرفی رو با اینکه سه پشت چیگه ها بود مثلا، وقتی میخواست یه هر این دیگر رو نفهم من ترکی میگفت به اون آجای بکنه اون درپون و بساکش بلی که دیگر اون نفهم بعد از اون ترک های سلجوقی میان که که تغرول بنیانگذار سلسونی سلجوقی اصلا سواد نداشته نه مثل من سواد نداشته، ها اله بله، اولا تا کنم که میگه توقیش تو ر چنین بود یه خطی چشیده تو چنین بود بر شکل چماقی به جای امضا و پراف کردن